استد کلیک سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه شب و روزگارتون به خیر باشه و شاد و سرحال باشید در خدمت یکی دیگه از وبلاگ نویس‌های عزیز هستیم که قرار باش به مناسبت روز وبلاگ‌نویسی گفتگو بکنیم یکی از وبلاگ نویسانی که روزانه مینیویسه و من وبلاگش رو خیلی دوست دارم گرچه مدتی کم‌تر مینیویسه و انگار کمی کشیده عقب و خب خیلی هم وبلاگ نمیشه به نسبت متعرضی به قضیه هست و قطعا این گفتگوی گفتگوی بسیار داغی خواهد شد بهتون قول میدم ولی خب من ویبلاکش رو از ولی خب من وبلاگش رو من نوشتنش رو خیلی دوست دارم و خیلی به من لطف داره همونطور که از اسم شماره برنامه فهمیدین قراره به خانم نیلی صحبت بکنم و خیلی به همون افتخار دادن که قرار به همون امروز گفتگو بکنه خب وقت تلف نمیکنم. سلام نیلی عزیز خیلی خوش اومدی و خیلی لطف کردی که وقت گذاشتی تا من بتونم باهات یک گپ و گفتگویی داشته باشم خیلی ممنونم که قبول کردی و اگر سلامی هم به شنوندگان داری با کمال میل میشتبین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز خیلی ممنونم که منو دعوت کردین و مرش دیگه اینقدر لطف دارید خواهش میکنم لطف تو دوست عزیز و خیلی ممنونم که قبول کردی با من یه گفتگو بکنیم خوب اول از همه بگو که حال و احوال چطوره خوبی خوشی همه چی خوبه همه چی رواله ممنون خدا رو که حالا بهتره ولی یکم به خاطر دورفتن و بلاغم الان به مشکل خوردم او خو خو خو خو خو. چقدر بد. میتونم به نوعی حالت رو درک کنم اتفاقا با یکی از بچه ها هم صحبت میکردیم و با هم گفت میزدیم در این مورد اه اه اونم یه نظراتی راج به این قضیه داد و من هم مخالف اینم که آشنا و بلاگ آدم رو بخونه ولی خب میخوام نظرت رو هم بپرسم که کلا چرا دوست نداری و این حرف ولی خب بعدا بهش میپردازیم و الان اول گفتگوه فعلا به عنوان شروع اول به ما بگوی که نلی کیه یه بیوگرافی و یه معرفی از خودت و اینکه کی هستی به ما بگو و خودتو معرفی کن و هر چیزی که فکر میکنی گفتنش برای مخاطب کاملا اوکیه و حریم خصوصیت به مشکل نمیخوره با کمال میل میشنریم متولد 23 آذر 75 چهار سالی که متحل و چهار تا کنکور ناموفق. تا دارم متاسفانه یه برادر کچکتر از خودم دارم و متاسفانه بازم متاسفانه که خواهر ندارم و الانم توی شهر غریب زندگی میکنم و هیچ فامیل و آشنایی هم ندارم منظور هم که فامیل و آشنایی تو اون شهر ندارم قبل از که بگی یه برادر کچکتر دارم خیلی متاسفانه متاسفانه گفتید فکر کردم می‌خوای بگی و متأسفانه برادر کوچکترم هم کنکور قبول نشد. <تصفيق> و خب و خب کنکور دادنم کنکور ناموفق به نظر من متأسفانه نداره. از این جهت که خب من خودم خیلی کنکور ناموفق زیادی داشتم، خودم کلی امتحان دادم که موفق نشدم و ناموفقیت صرفا تأسف نداره و تأسف فقط وقتی داره که آدم وقتی که شکست میخوره دیگه بلند نشه. من توی خیلی جاها شکست خوردم و باز دوباره بلند شدم و تلاش کردم و به نظرم مهم تسلیم ش... نشدنه و تسلیم شدنه که تصف داره و تا زمانی که آدم تسلیم نشه و هی تلاش کنه به نظرم خیلی خوبه پس به نوعی تو مادر کنکور ایرانی البته <تصرف> شوخی میکنم امیدوارم که سال دیگه بهتره کنی و منو شنوندگانم برای تحسابی دعا میکنیم که سال بعد یه خبره خیلی خوب به کنکورت و ما بدی و این تصدیم و بدون که این تصدیم شدنه که تأصف داره نه صرفا کنکور شرکت کردن خیلی هستن بار دهان قبول میشن و خیلی هستن بار بیستم قبول میشن اصلا این قبول شدن تعداد کنکور مهم, مهم نیست مهم نیست که آدم تصدیم نشه و در نهایت موفق میشه درسته منم تا وقتی که بهش نرسم تصدیم نمیشم و انقدر پر رو هستم که ادامه بدم حقیقا باری که آدم به اونقدر پر رو باشه که در نهایت شکستش بده من خیلی تشویقت میکنم خیلی خوبه انقدر بجن که پیروز بشی آفرین باریکر مرسی تو و شنوانده و خاننده های همیشه من لذب داشتید بازم من خایش میکنم لطفه از شماست خب میتونی بهمون بگی که از چه سالی و چه ماه چه روزی به پاکتی شروع کردی و میتونی بگی اصلا چه کسی تو رو با دنیای وبلاگ آشنا کرد از اون روزا و از اون حال هواها به بهمون میگی که کلا چطوری با این دنیا آشنا شدی و اون موقع چطور فکر می‌کردی مون بگو من ماه و روزش رو دقیق یادم نمیاد ولی سال تحصیلی 89 90 بود که من سوم دبیرستان بودم برای انجمن اسلامی مدرسه‌ام قرار شد که وبلاگ بزنیم اونجا ما رو با وبلاگ و وبلاگ نویسی آشنا نکردن طریق کار و ساختش رو بهمون یاد دادن بعدمندم که چقدر چیز چرا چیز باحالیه چرا واسه خودم نسازم یه سر تو وبلاگ‌ها گشت هم دیدم که روزانه زن... روزانه نویسی می‌کنن گفتم چه کار خوبیه چرا من ننویسم اون زمان من علاوه بر انشاءهای مدرسه باز خودم دلنوشتهام می‌نوشتام، می‌نوشتام که معمولا معلم‌ها و دوستام تشویقاً می‌کردن. با گفتن خب باشه، یه وبلاگ میزنم اینا رو منتشر می‌کنم. وبلاگ زدم فکر کنم سال همون 89 بود. ولی فکر زمستون بود. اسمش هم دلنوشته های من یا همچین اسم خیلی ساده‌ای بود. اسم... بعد به اسم خودم منتشر می‌کردم و خیلی کامنت های کمی داشتم، نهایت دو تا سه تا. بعدش بعدش یه مدت خاطر درس و این چیزا اوولش کردم بعد اینترنت هم دالاگ بود خیلی سختم بودش دوباره بعد یه مدت یه وبلاگ دیگه زدم توش دوباره روزانه هامو نوشتم که اسمشو اصلا یادم نمیاد که بعد اونم ول کردم بعد چند سال دوباره که اومدم وبلاگار خوندم حوض کردم که برگردم سراغ همون وبلاگم که بعد فهمیدم که بلاکفا متصدفان وبلاگ ها رو از بین برده منم هیچینش یادم نمی اومد در چه شدم ولی و بعدش دوباره شروع کردم با اسم نیلی نوشتم خیلی حالا هوای خوبی بود خیلی جالب بود انگار که یه دنیا جدیدی برون باز شده بود نمیتونم حستم توصیف کنم جوری بود که فقط دوست داشتم اینترنت فعض بشه و من بشینم وبلاگ بخونم بیشتر خوندنشو دوست داشتم بح, بح پس از سوم دبیرستان شروع کردی اونجا با وبلاگ هاشتن شدی نمیدونم چرا این اصلا عادت زشته خیلی از مدرسه که یه اسلامی دارن که سریع چند نفر میارن توش میگن برو وبلاگ بساز ویبلاگ ها ساخته میشن مطالبش از سایت های اسلامی کپی میشن با یه چند تا عکس خاص بعد اون وبلاگ بعد از یه مدتی حالا میره تو مسابقه جواهش رو میگیره یا اون دانش آموز اون درس رو میخونه از اون سال میره از اون مدرسه میره و وبلاگ همین جوری بالا استفاده میمونه و دوباره همین چرخ تکرار میشه دانش آموز جدید وبلاگ جدید و اسپامین میشه. من یادم به هم بهم به پیشنهاد شد که بیا و وبلاگ انجامن اسلامی رو بین اوته یه قسمتی داشتی کلا کارای دینیو اینا میکردن اسمش یادم نمیاد ولی معلم پرورشی اینو مدیریتش میکرد. و من قبول نکردم و گفتم من نیستم و نمیتونم. و نمیدونم چه عادت زشتیه که مدت‌ها دارم. ولی خب من خیلی سال پیش شروع کردم منم روزش یادم نمیاد. خیلی خوبه. و ولی اینو یادم میاد که توی این مدرسه‌ای که بودم با معلم ادبیاتم خیلی ومرگ بازی می‌کردیم من معلم ادبیاتم کامنت می‌دادم چند بار با من کامنت ساده بود و این صحبتا. اصلاً من یه خاطره‌ای دارم که گلن من مدرسه رو وبلاگ نویس کردم توی یه دوره وای نه اشتباه شد سوم راه نمایی بودم آها پس سوم راه نمایی بودی که شروع کردی اصلا من حال هواتم تو این مدت خیلی تغییر کرده یا نه تغییر خاصی نکرده اصلا فکر میکنی اون زمان حال هواهی خاصی داشتی یا نه نداشتی من خب فکر میکنم کامنتات کم بوده ولی خب پرش بوده دیگه من کاملا یادم یاد او زمان کامنت کم بود ولی با عشق زیاد بود براستی کارتارو چند می خریدی؟ من یادم نمیاد، من خودم نمی خریدم داداش هم میفرستدم برام بخره از جیب خودش می خریدی خیلی تغییر نکرده فقط اون موقع فکر میکردم که وبلاگ جایی که فقط باید رسمی بنویسم همه چیزو این حقیقت مو به مو بنویسم نمیدونستم که باید چیزایی رو نگذارش برای خودت. آره درسته بعد دادم این چیزایی رو برای خودش نگرد <تصفيق> در صورتی که با بزرگ شدن متوجه شدی که کلیم فضای وبلاگ خیلی گسترده تر از چیزی که رو میکردی. و اینکه. من, این من یادم که یه سال امتحان داشتم بعد یه وبلاگی پیدا کردم که خیلی قشنگ بود آهنگ متاسفانه مزیفالیام هم داشت بود تمام وقت روز اونو خوند. چقدر جالب. ما هم روز دیگه فکر نکنم چینی مخاطبایی داشته باشیم که یه روز بذارم بیان ویبلاغامونو به استراغ کامل بیل بزنن و از سر تا بخونن البته این نوع هم که آدم بره سر تا بیل بزنه هم دیگه نداریم خیلی کم داریم به نظر من ولی خب اینطوریه درسته وقتی بزرگ شدم تازه فهمیدم که ویبلاغ نویسی واقعا خیلی بزرگه و تونه بی‌رحم باشه آره به نوعی وبلاگ دیمیسی میتونه بی‌رحم باشه ولی خود خود وبلاگ دیمیسی نه و خود وبلاگ نه بلکه اون آدمایی که توش هستن میتونن بیرحم باشن مثلا این میمونه اینستاگرام خود برنامه‌اش بیرحم نیست ولی اون آدمایی که توشنن اون محیط رو یه محیط بی‌رحمانه میکنن اون رفتارهایی توش میکنن که بسیار بی‌رحمانه است ولی خب آره آدمای بی‌رحمی وقتی زیاد توش باشن میتونه بیرحمم باشه ولی فعلا میخوام از شروع شروع بش بپردازیم به پردازیم و بعد قضیه میرسیم می دوستایی که اون موقع داشتی الان هم هستن و باهات در تماس هستن یا نه همون موقع موندن و دیگه ارتباطی ندارید با ولی هم. من همزم اینجوری هم اه ویبلاگ... اه اگه یه وبلاگیو دنبال کنم حتما یه روز برمیگردم از اولین پست تا آخرین پست میخونم. بعضی وقتا کامنت های پست ها هم میخونم. اوه چه جالب که تو کامنت های پست. خب همه مثل تو نیستن. تو فکر نمی کنم تا الوبلوگ من بیلی زده باشی. ولی خب اصن عین هستی که باری کرده تعجب کردم. نه من متاسفانه موقعش دوستی نداشتم فقط از وبلاگ نلی دوست دارم. چقدر بعد که اون موقع دوست زیادی نذاشته اصلا میگی دوست نداشتی و همه ب... همه دوستات از نلی داری ولی فکر میکنم وقتی وقتی که میگی من خودم به بیل زنم و کل محتوای وبلاگو می خوندم و حتی نظرات رو من فکر نمیکنم تو حالا منو انقدر سخت خونده باشی ولی من فکر میکنم قبل از اینکه خودم باس به موباس کنم بهت سر میزدم ولی گذری از اون وقتی که قالب وبلاگیت کاملا سفید بود و عکس یه پنجره داشت اگر خاطر مونده باشه. ولی خیلی قدیمیه فیلم کنم یکی دو سال پیشه. یه سال و نیم پیش. دو سال و نیم پیش. آره یه همچین چیزی. آره این رازه قدیمی قدیمیم بود. نمیدونستم بهم سر میزنید. آره من... کلن یه علاقه دیگه هم که دارم اینه که برگردم وبلاگ قدیمی دوستان پیدا کنم بخونم ببینم چقدر تغییر کردن دردقاشون چی بوده بیشتر بشناسمشون و اگر از اون زمان که دوست نداشته خب که فکر نمی کنم بتونی بگی آیا ببلاگ نویسای اون موقع دوستانوی خوبی بودن یا نه آیا اصلا ها شخصیتشون تغییر کرده رفتارشون تغییر کرده یا نه، کلیاتش همونه که خب گفتی دوستی نداشتی و خب با سلمان از من نمیتونی مقایسه کنی آره موقع دوست نداشتم ولی خب چون خواننده پر و بودم میتونم بگم که قدیمی خیلی سمیمیتر مینوشتن و کمتر دنبال پوز و برند شدن و این چیزا بودن خب اون زمان منو محل نمیدادیم و و نمیدونم چرا و یادمه یادرسی هم داشتم قبلا قدیمی که outofblock.in با این آدرس حتی اگر بگردی هم فکر کنم نظر برات داده باشم اگر سرچ کنی خب ولی خب محل ندادی دیگه و خب حالا وقت انتقامه نگر داشته بودم اینجا حالت رو بگیرم آخ میشه من دیگه ادامه ندم موسیعه رو. نه دیگه گیموور شدی نمیتونی وسطش بری وقتی که وارد شدی دیگه ادامه, ادامه باید بدید آخرش ولی خب برای آره با قسمت پوز و برند شدن هم توی مصابه قبلی هم در موردش حرف زدیم باز نمیخوام تکرار مکررات کنم و خودتم اونجا قطعا نظراتم رو میشنوی ولی آره خیلی سفت و سخت شده فضا یکی هم شده به نظر من اون سالا همه مهربونتر بودن همه دوستتر بودن فکر میکنم احساس من این طوریه و نظر من این طوریه ولی خب امروز بیرگ نویسی امروز این طوری نیست و این پوزو و برند شدنه و این, این پوز و برند شده کلا این سمیمیت رو کشته و خب باز بهش میرسیم که با هم بحث بکنیم و میخوام با حسن راجبش با هم حرف بزنیم باشه من هم مدرس جایدو نمیدم خب دوست هزیز من که کلا پنل محور نیستم و فقط گیر ستاره های نیستم که روشن بشه من کل سیستم رو میچرخم مطالب خوبی اگه باشه میخونم استفاده میکنم. پس فکر کنم من بتونم راحت پیدات کنم. اینقدر فکر میکنم بیل بیل زدم و بلاگتو که قلب نبیتو دیگه بشناسم. و خیلی راحت تابلوه و تابلو می نویسی و خیلی راحت اگه داد آدرس هم دادیم من بتونم کنم. پس بهتره که از این شوخی ها با من نکنی. من یاد یه قضیه یه انداختی. یه فلاگری هست که من خیلی دارم بعد تون تون آدرس عوض میکنه هیچ وقتا به من آدرس نمیده هر سری هم من آدرس پیدا میکنم براش کامنت میذارم و بعد دوباره بعد چند وقت که عوض میکنه باز به من آدرس نمیده الانا میادم اون قضیه افتادم پس به نظرت اون زمان بهتر بود درسته؟ آره خیلی مسلما بهتر و سمیمیتر بوده بعد کسی از بالا به بقیه نگاه نمی کرد خب من قبل از اینکه ما گپ رو شروع بکنیم آره من که خیلی پیگیرم حتی کانالاشون هم پیدا میکنم میخونم <تصفيق> پس کلن جفتمون آدم های پیگیری هستیم کلن خیلی گیریم گیر قضیه خب قبل از این که شروع بکنم کلن راجب این مسئله گپ بزنیم باید توضیح بدم اونم اینه که کلن ما دونو تعریف کلیه از این قضیه داریم اینه که ما یه ویبلاگستان داریم و یه ویبلاگ, فار... یه ویبلاگ داریم. وبلاگستان ببینید کلا وبلاگ اصلا تعریفش اینه که یه نفر میره یه صفحه باز میکنه حالا هر مطلبی که تو دوست داشت میتونه توش بنویسه بعد این مطلب رو حالا همرسانی میکنه یا بالاخره دوستاش میان میخونن بعد به بقیه پیشنهاد میدن این مطلب خلاصه دست به دست میشه چرخ میخوره و بعد سری آدما میان روش نظر میدن و اون آدم مسلماً میتونه با نظر دهنده هاش خودش انتخاب کنه که با این نظرات چطوری برخورد کنه میتونه صمیمی برخورد کنه میتونه به همشون پاسخ بده میتونه نده میتونه به همه توهین کنه و هر کاری که دوست داره میتونه بکنه و از این جهت قاعده وبلاگ‌نویسی همینه و هیچ کس هم حق نداره بگه تو چرا اینطوری می‌نویسی یا تو چرا اینطوری رفتار می‌کنی یا تو چرا نظرات رو اینطوری جواب میدی این این تعریف کلی خود این قضیه است این ویبلاگی هم کسی حق نداره بگه تو تو وبلاگت از این بهتره یا از این پایینتره از این قویتره از این زعیفتره تو شاخی تو نشاخی این کلن این قضیهش دست راست باشه که کلن تعریف و قضیه ی ولی ما به بلاگستان میپردازیم اونم اینی که تمامی این گپ و گفتار راجب بلاگستانه وقتی که چند تا وبلاگ میان در کنار هم جمع میشن و یه اجتماعی تشکیل میدن و اسمشو میذارن بلاگستان فارسی یعنی اینکه اینا جمع شدن با هم یه سری آدمایی هستن وبلاگ دارن توی یه منطقه ای دارن با هم مصالمه تا مثالا زندگی میکنن پست میذارن محتوا تولید میکنن و با هم تعامل دارن و مجبوعشون یه دونه اجتماعی رو به نام بلاگستان درست کرده پس یک الان اینجا ما با تپه تپه یا تک به تک یا هر چه میدونم دونم شعبه یه جا طرف نیستیم ما الان با یک شبکه طرفیم یه محدوده طرفیم که داخلش یه سری آدرس ها وجود دارن که توشون اون داره محتوى تولید میشه و اسمشون هم ویبلاگه خب ما داریم این رو نقد می و بهش بررسی می کنیم تو مورد اول هر شعبه برای خودش هر کار دوست داره بکنه حالا نهایتشونه که اگه رفتارا بد بود مخاطب ریزش میکنه از دست میره یا مخاطب دیگه نظر نمیده یا اون ویبلاک فراموش میشه ولی وقتی که توی یه شبکه ای ما داریم فعالیت میکنیم پس این قضیه کلن فهم میکنه و کلا ما گپ گف و گفته ما راجبه این قسمت شبکهی داستان و تعاملات اجتماعی توی این شبکه است وقتی که ما اومدیم این شبکه رو برای ایجاد دوستی ها برای ایجاد تعاملات ایجاد کردیم پس یه سری اتفاقاتی میفته یه سری آفتهایی داخلش به وجود میاد که ما توی گپش اشاره میکنیم توی این گفتگو ولی همش مختص قسمت اجتماع است، نه اون تکیه یا آدم دوتا راه داره دیگه یا آدم توی این اجتماع درست رفتار میکنه اخلاق مداری میکنه به خاطر اینکه توی اجتماع داره تعامل میکنه داره بهدهستو میکنه با بقیه و اصولا آدم باید توی اجتماع درست رفتار کنه. شما وقتی توی جامعه هستید همیشه دروغ نکوه شده همیشه توهین به دیگران نکوه شده کسی از شما بیاد پرسه ساعت چنده بهش توهین نمیکنید. کللا غرور نکوه شده وقتی که تو اجتماع داریم زندگی میکنیم بعد اخلاق مدار باشیم دیگه بحث تکی نیست که آدم خودش میدونه چیکار کنه. وقتی که اجتماع شدیم بعد اینا رو بهش بپردازیم بهش توجه بکنیم دو حالت داره یه آدم وقتی که اج... یه آدم تکی انجام میده تک میشه و خودش دیگه خودشه با خودش و ممکنه تو حالات تکی هم یک بلاگری بره بلاگ کسی دیگه رو بخونه و نظر بذاره و خب باز اونجای دوستیای خیلی کوچیک و کم شکل بگیره ولی وقتی که ما این طرف یه اجتماعی به وجود آوردیم دیگه یواش یواش رفتارها مهم میشه و کلیه نقدها که یعنی نقدی که ما این بحث داریم مطرح می‌کنیم همش مربوط به این قضیه است و ما اصلا هدفمون از ایجاد این اجتماعی بوده که از همدیگه حمایت کنیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم، دوستی کنیم، همدیگه رو همرسانی کنیم، کمک کنیم، به همدیگه انرژی بدیم و همه همدیگه رو نیگار داریم. ولی وقتی که تو این بین یه سری آفاتای به وجود میاد، دقیقاً به کل سیستم zarar میرسونه. چطوری؟ مثلا اگر یکی کامنت از بالا به پایین پاسخ بده یا یکی دروغ بگه یا یکی بر بقیه توهین یکی اینجا با قانون معروف اذیت بکنه و شرایطو به هم بزنه کل جم زرر میبینه چون که بلاگیر جدید وقتی میاد این فرهنگ رو میگیره اینش، این،, این رو میگیره و خب کلیه آفتایی که ما توی این گفتگو بررسی میکنیم همه راجع به این اجتماع است نه اون حالت راستی که گفتم ما توی این گفتگوی که قرار انجام بدیم با, هم با همه دوستانم انجام دادیم قسمت این اجتماع رو داریم بررسی میکنیم آفتاش شناسایی میکنیم و پیشنهادات خودمون میدیم و امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره و یه قدمی تو این راستا برداریم وگرنه نه میگم یادم این اجتماع رو ش میشه یا خودش میره برای خودش به صورت شخصی تکیب با مخاطبای خودش با دوستای بللاگر خودش تعامات خصوصی برقرار میکنه و خب دیگه اون وقت دیگه به کسی به کسیدم بد کاری داشته باشه چون قانونش همینه. خب فقط خواستم مورش این توضیح رو بدم که اگر احانا توی بحثی کسی ناراحت شد بدون قضیه قسمت اجتماعی قضیه است و ما قصدنا داریم دخالت بکنیم توی رفتار کسی یا اینکه به کسی ایراد بگیریم بگیم چرا اینطوریه یا چرا این کار رو میکنن یا چرا این کارو نمیکنن بله همین جای بحث بودیم اونجا بودیم که خیلی انسان های پیگیری هستیم و این که فکر میکنم اون زمان و طبق چیزی که گفتیم تو فکر میکنی که اون زمان بهتر از امروز بود خیلی خوبه کلم پیگیر بودن خیلی خوبه ولی این که خیلی بده ابلاغیه میره فقط تو کانال مینویسه این خداش خوب نیست خب حالا رسیم به سوال بعدی برات وبلاگ دنیای وبلاگ چه معنی داره؟ اگر بخوای به کسی اینو تعریفش کنی چطوری تعریفش میکنی؟ یعنی چه معنی عادیش رو و چه معنی چه معنی اساسی و حسیش رو چطور تعریف میکنی؟ بهمون بگو. خیلی سوال سختی پرسیدی. معنی و عادیش میشه جایی که مردم جایی که میری، مینویسی بقیه می میخونی نظر میدی نظرات رو میگیری. کلا یه سری تعامل میکنی ولی معنی اساسی و حسیش میتونم هم میشه جایی که میتونی آدمایی مثل خودت رو پیدا کنی یا آدمایی که برای جال، جالبند میتونی دنیا رو از دیده بقیه ببینی کمک کنی نظراتشون رو بگیری نظر بدی کللا خیلی چیز جالبیه چند تا زندگی موازی داری. آره با حرفات موافقم. بعد به نظرت آدم ها و بلاگ نمیست ها به لحاظ دوست شدن و مهربون بودن و یا به اسطلاح با هم دیگه جوشیدن قدیم بهتر بودن یا الان بهترن یعنی کل مجموعه رو میگم فکر میکنی به لحاظ شخصیتی لگره قدیم بهتر بودن یا جدیدی ها بهترن البته منظورم از شخصیت مسلمه که نمیشه آدم شخصیتاشون رو کامل بفهمه و بدون هر چه شخصیتی داره ولی خب با کلیات رفتارشون و نوع پاسخاشون و تمامالاشون آدم میتونه متوجه بشه یه کلیاتی از سطحی ترین شخص سطحی ترین نوع شخصیتشون رو و اون شخصی ترین و سطحی ترین اطلاعاتی رو راجع به شخصیتشون میتونه به دست بیاره و خب منظور من این کلیاته و نظر این کلی از شخصیتیشون به چه شکله؟ قدیم خیلی سمیمیتر بودن من دوست نداشتم ولی دوستیاشون رو میخونم الان هم هستن من خودم خیلی از این دوستایی خوب دارم اینجا ولی م... کمتر از گذشتن به صمییت گذشته نیستن خیلی هاشون بله درسته کاملا باات موافقم به سرمایت گذشته نیستن و تعدادشونم خیلی کم متاسفانه الان من خیلی وقت حس که باند بازی شده چند تا بلاگر با هم یه باندن چنده دیگه یه باند دیگه بعدی وقتا بین دوا میشه مثل دوای قویلی این چیزا ترسناکش میکنه خیلی جالبه من از یکی از دوستانم قبلا شنیده بودم که بحث باند و اینجور چیزا وجود داره ولی خب نمیتونستم تاییدش کنم ولی الان تو گفتی باند و باند وجود داره تعجب کردم با یکی از دوستان که گفتگو کردیم هم من گفتم که ممکنه وجود داشته باشه ولی به صورت این نیستش که همه با هم هماهنگ شده کارهای باندی انجام بدن ولی الان شنیدم خیلی تعجب کردم ولی خب به این باندا در ادامه میرسیم من نوشتم و در موردش صحبت میکنیم و برای من خیلی جالبه که تو توی مصاحبه اول هنوز وقتی که گفتگوی ای منو با بقیه نشنیدی دقیقا به این وجود بانده اشاره کردی و خیلی این جای تحجب داشت بارم. فکر میکنم که وقتی که بی مقدمه راجب بهش اشاره کردی خوب حتما واقعا هست منی من شک شدم به نوعی. یکی از دوستام که با هم صحبت میکردیم و کلن از این دنیا رفت برای همیشه دیگه نمی نویسه. ات ما با هم دوام کردیم اون فکر می... اونم اشاره کرده بود و می گفتش که متاسفانه باند وجود داره خیلی حرفه هم وجود داره و اینه دارن همه رو اذیت میکنن همه تازه وارددار رو بایکوت میکنن توهین میکنن تو خصوصی ها توهینایی ناجور میکنن ناامید میکنن و حذف میکنن که فقط خودشون باشن هیچ کسی نیاد که آدم جدید نیاد فقط خودشون باشن خودشون شاخه داستان باشن که من باش خیلی مخالف بودم ولی خب الان که تو اشاره کردی با هم بیشتر صحبت می‌کنیم راجعش کلا تو جامعه همین صمیمیت کم شده فکر نکنم خیلی به را مربوط بشه کلا این زندگی و های زندگی انقدر زیاد شده که زیاد نمیتون وقت نداریم با هم دیگه معاشرت کنیم بعد خب اشاره کردی که کلا چون زندگی یا سخت شده الان رفتار اینطوری شده ولی من باهت مخالفم چون که ما در نهایت می پشت سیستم نشستیم و پشت دستکنون که حداقل میتونیم با مهربون باشیم نمیتونیم آره این هم هست شاید هم دیلش نگاه از بالا به پایین بعضی ها باشه دیگه رو در رو که همدیگره نمی بینیم پشت سیستم کلمه تایپ کردنه پس همه این ها رو دارن من این سختی رو دارن. پس چرا من سعی می همیشه، با انسان مهربون باشم کمکشون کنم و اینجور چیزا ولی خب نه مخالفم ربطی اصلا نداره این به شخصیت آدم رفتاری که آدم می‌تونه با وجود کلی فشاری که داره و سختی هایی که داره باز آدم خندرویی باشه باز با آدم رو کمک کنه باز با آدم رو با احترام حرف بزنه و باز آدم ها رو دوست داشته باشه و این صحبت ها ولی اینکه صرفا سختی باشه من برم چشمه رو در بیارم که خب نه من مخالفم و مخصوصا پشت دستکا دیگه پشت دستگاه که اصلا هیچ گونه بهونه‌ای وجود نداره و تو فکر می‌کنی تو هم با من موافقی که ایمبلغینسی امروز خیلی فخر فروش و مغرور شدن آی آره خیلی موافقم چون منم خیلی از این ایمبلاگات دیدم که کلی هم طرفدار خواننده دارن من من واقعا دلیل محبوبیتشون رو نمی‌فهمم. دلیل محبوبیتشون رو نمی‌فهمم که خب باهات مخالفم صرفا اینکه کسی رفتارش بده دلیل نمیشه که همونو بایکوتش کنن که. نه من مخالف مخالفم. به نظر من ادم‌ها میتونن آدم اینطوری رفتار کنن خب مشهورم باشن فرقی نداره. واقعا منم نمی‌دونم. شاید چون حس می‌کنن قدیمی ترن یا خواننده های بیشتری دارن. یا دوستایی بیشتری دارن یا به خاطر شغل یا رشته، یا وضع مالی نمیدونم واقعا ولی نمی خب اینطوری که من فهمیدم تو فکر میکنی که پس آدمی که مغرور اصولا نباید محبوب بشه یا همه بشناسنش و اینا فهم میکنی آدم نباید اینا رو محبوب کنن نظرت اینه که اینا رو نبینن به نظر من کسی که مغروره نمیتونه محبوب بشه ولی دو چیزی که دو می میبینم دقیقا بررکس اینه نمیدونم من خودم نمیتونم جذبی کسی که مغروره بشم یا حتی اقل باش ارتباط بگیرم و بخوام بخونمش مم. نه به نظرم نباید محبوبشون کنیم این محبوبیت بیشتر مغرورشون میکنه کاش ازشون بخوایم که ذرا بیان پایین تر ما با واقعاً هم واقعاً فرقی نداریم مصابیم این نگاهه به نظرت چرا وجود داره؟ واقعا من شاید چون حس میکنن قدیمی ترن یا خاننده بیشتری دارن یا دوستای بیشتری دارن یا به خاطر شغل یا رشته یا وضع مالی نمیدونم واقعا نمیدونم بسیار عالی پس به نظرت بلاگر گیرامی خیلی مغرورن و نگاهاشون از بالا به پایینه. متأسفانه باید موافقم به خاطر اینکه چند مورد دیدم متأسفانه آره هم خودم دیدم و هم از خیلی شنیدم که همچین قضیه‌ای هست ادعا خیلی زیاده و همیشه میگن وقت نداریم و اینا ولی متأسفانه چیزی نیستن که نشون میدن البته نظر شخصی من اینه میتونه درست نباشه و اینکه اگر کسی یه کاری رو میکنه باید پی همه چیزش هم به تنیش بمونه نمیتونه آدم مثلا بپره تو استخشناک شنا کنه ولی خیس نشه آدم نمیتونه مثلا هم یه کیکو داشته باشه و همون کیکو بخوره نمیشه اینو همزمان یه ای آدم به پرتو سخت شناک کنه ولی خیس نشه. نمیشه وقتی که آدم یه کاری رو شروع میکنه باید پیش هم به تنش بماله. وقتی که آدم میاد یه وبلاگ درست میکنه که به این ویسه حرفاش رو مردم بشنود تامال اجتماعی داشته باشه ارتباط به هر قرار کنه باید ازداقل روزی یک ساعت رو برای این قضیه وقت بذاره. برای مثال من میشینم نگاه میکنم می که آره من وقت ندارم. صبح میرم مدرسه، خب مثلا تو هفته مدرسه دارم سر کار میرم یا چه میدونم کارام زیاده بعد خیلی زبان بخونم نمیدونم اینا میشینم چرتکه میندازم میبینم نه وقت نمیکنم برای وبلاگ نوشتم وقت نمیکنم کنم صرف مثلا من وبلاگ بنویسم ازش هیچی پول در نیارم به جاش میرم به جاشه که برم مثلا چه میدونم پادکست درست کنم به جاشه که برم ویدیوهای آموزشی درست کنم این تایمو بذارم رو اون بفروشمش پول در بیارم خیلی بهتره پس من ویبلاغستان نمی نویسم باز نمی کنم. وقتی که اومدم باز کردم یعنی دیگه باید براش وقت بذارم وقتی که سیدی وقتی که میخوام پول در بیارم از آموزش باید بشینم روش کار کنم سیدی تولید کنم مثلا نمیشه که آدم کار رو شروع کنه بعد بگه وقتشو ندارم نمیشه آدم بگه خب جمشیم یه آلبوم درست کنیم بعد بگه وقتشو ندارم آلبوم رو درست کنم. منظورم رو میشی میشه نداره شخصی منه وقتی آدم یه ویبلاگ داره یعنی موظف باید به مخاطب احترام بذاره باید برای مخاطب وقت بذاره و باید هرچی که مخاطب میگه بگه چشم و باید وقت بذار باز کنه و باید درست مدیریتش کنه و دیگه آره به قول تو متاسفانه اینطوری شده برعکس شده و هرچی احترام کمتره وقت کمتر گذاشته میشه او دوباره تره. و قسمتی که وجود داره اینه که چیزی نیستن که نشون میدن یعنی می نویسن تا محبوب بشن نمی نویسن تا آگاهی بره بالا صرفا برای محبوب شدن این کار رو میکنن کلا دنبال این جور چیزان که تاپ بشن گنده بشن چه میدونم شاخ بشن مثل اینستاگرام و چه میدونم ملت به اینا تعظیم کنن دیگه البته این, این نگاه یه چیزی هم بگم این نگاه از بالا به پایین اونقدر بوده که توی این دنیا آدم تو حالتهای مختلفی میبینه که این متولور شده توجه میکنی آدم وقتی یه کسی وقتی یه غروری داره بعد تو حالتهای مختلف و لخره دیده میشه این غرور در نهایت هرچقدر بخواد پنهانش کنه حالتهای مختلفش مثل این که یا جواب داده نمیشه یا پاک میشه مثلا من چندین بار نه یه نظراتی نوشتم که توش توهینی بوده، نه چیزی ولی دیدم حذف شده یا مثلا تایید شده پاسخ داده نشده یا یه موقع هست نظر داده میشه و دیگه واقعا پاسخ نداره مثلا من وقتی بنویسم مرسی خوب بود دیگه این من پاسخ نداره صرفا نویسنده فقط میتونه تاییدش کنه پاسخ زیرش ننویسه ولی وقتی که من بحث کردم یه مترو نیم صحبت کردم نظرمو رو گفتم نخت کردم چند تا سوال پرسیدم و فقط تایید میشه این عملا یعنی چی؟ من اینطوری برداشت میکنم که این یعنی گفته خفه شو نظرتو برای من مهم نیست گذاشتی تاییدش کرد یا شاید تایید کرده تعدادی که کنار قصد... اس... کلمه نظرات کنارش عدده فقط اینو تایید کردی که اون عدده بره بالا من این من اینو برداشت میکنم وقتی که یه متر نیم نظر می نویستم و بدون پاسخ تعیید میشه یا حذف میشه این یه نمودشه یه نمودش, یه نمودش اینه که از بالا به پایین پاسخ داده میشه تو خصوصی تیکن داخته میشه و از بالا به پایین نگات میکنن و خب با عشق خاصی که عملا نز... توی نظرات این نگاه از بالا رو راحت حفظ میکنن آره ببخشید. یا اشخاصی که عملاً توی این نظرا این نگاه از بالا به پایینشونا حفظ میکنن و هیچ‌یک از مخاطبینم اینو نمی‌تونن متوجه بشن. چرا فکر میکنین چرا اینطوری شده؟ هر چیزی که میبینم دارم میگم برعکس شده. چون عملاً که نظراتو جواب نمیدن یا بد برخورد میکنن خیلی طرفداراشون بیشتر روز به روز فالووراشون بالاتر میره. من نمیگم بیاید منو فالو کنید ولی میگم اینجورا دمار فالو نکنیم حتی اینه که میتونیم یه ذره به خودشون بیاریمشون. نمی‌تونم نمیتونم میگم کامل موافقم یه مقداری باید نظرت به نظر من باید اصلاح بشه متاسفانه دروگم خیلی زیاد شده بهت میگم باد کامل موافق نیستم ببین نمیشه یه طرفه به قاضی رفت اه یعنی اه به همه از این حک داد ولی خب برای بعضی هاشونصدق میکنه و مشکل اساسی اینجاست که ما, ما ایرانیا کللا به وتسازی عادت داریم. یعنی بعضی غرور تقصیر خودشون نیست این غرورها رو بهشون میدم بقیه. با ایرانیا کللا خاصیتمونه سریع یکی که یه ذره خوشمون بیاد سری نمی میکنیمش بوت تو همه زمینه ها اینجوری یادم دقیق نگاه کنه، هممون یه بوت داریم که پرستشش میکنیم مثلا نمونش طرفداره خاننده شماره یک میگن خاننده شماره یک بی نقص آهنگاش یعنی هیچ نقدی بهش وارد نیست بقیه هم تولید میکنن این نفکه فقط عالی داره تولید میکنه این بوتسازیه دیگه اون قضیه هم داره سری یکی رو بوت میکنن و اون آدم حتی اگه کار اشتباه کرد لایکش میکنن یعنی وقت این درسته خب طرف نمیفهمه که کدوم کارش درسته کدوم کارش غلطه. الان مثلا فکر که من توی یه شرکتی دارم کار میکنم پنجاه تا مشاور دور خود انجام کردم که اینا نظر بدن دو کارم من،, من کار درست انجام بدم وقتی که من هر کاری میکنم اینا میگن به خب من متوجه نمیشم که کدوم کارم غلطه کدوم کارم درسته فهم کنم همش درسته دیگه چه همه دارم میگن به. مخاطبان هم این طوری وقتی نمیدونم این خاصیت تو مغز ما چیه یه مثلا میان یه چیزی رو خوششون میاد بعد بوتش میکنن بعد پرستش میکنن بعد اگر بگی بالا چش دبروی در درمیارن خود من چندین بار به چند نفر انتقاد کردم موریداش ریختن توهین های خصوصی کردم یعنی توی قسمت خصوصی حسابی توهین کردن و گیر دادن پرت گفتن کلن به این به این شکل از بلاگیران نمیشه ایراد گرفت که تو چرا اینطوری؟ چون اینو این پامنبری ها اینو انقدر بادش میدن تصدیر خودش که نیست حالا اگه منم پامنبری ها منو باد بدن خب منم هم دقیقا همین کار میکنم دیگه دقیقا درست مثل اینستاگرام اینستاگرام دقیقا چطوریه همینو کپی کن این،, این طرف یعنی همینه آره راست میگه از این نظرش هست. فکر میکنین چرا بلی رو به اینجا رسیدم؟ برای خودم ساله؟ پس برای خودم سواله. خب من جواب میدم سال خودم و البته با نظر خودم ولی خب خیلی دوست داشتم نظر تو بشتم هم، ولی خب من اینا رو که میگم تو نظرتو نظرت نسبت به اینا بگو. اگه نظر منو میخوای نظر من اینه که ما آدما کللا به غرور میل داریم کللا خوشمون میاد از غرور از. خود برتر ببینید هم همینه علت مشکلاته. مشکلاتی که ما بهش برخوردیم درست همش مردم نیست ولی یه قسمتش جامعه است مردمه به خاطر اینکه همه همه چیزو برای خودمون میخوایم بگره جهنم و همین باعث بروز این مشکلات میشه مثلا یه کسی که پژو داره به کسی که پراید داره فخ میفروشه میگه ماشین تو پایینتره. پس من از تو آدم مهمتری هستم و محلش نمیذاره این نوع شخصیتی که تازگی ها گیر, گیر کردیم بهش علت های زیادی داره یکیش اون تو جامعه رو نمیگم دارم توی این محیط مجازی میگم که این اتفاقاتی که به وجود اومده علت های زیادی داره و که من الان مثلا چند تاشو میگم یکیش بلد نبودن کلن تعاریف این فضاست من فکر میکنم که ما خیلی ما خیلی های خیلی مدعی داریم که تعریف اولیه خیلی چیزها رو تو این رشته نمیدونن یعنی حثر همین ندونستنم هم محیط رو تبدیل میکنن به اینستاگرام و که این تبدیل کردن معلول این دلیله چون فضا رو بلد نیستن فکر میکنن این هم چیزی مثل اونه فکر میکنن اینجا هم بعد اون کار کرد یعنی وارد میشن فکر یعنی اونطوری فکر میکنن که اگر تعداد کامنت ها از یه مثلا مثل دنیا جهان وقت یکی رو آدم حساب نکنه یا مثل آقای ایکس فلان کارو باید بکنن به اصطلاح سلبریتی که میشن احساس سلبریتی بودن بهشون دست میده بعد دیگه شروع میکنن کلاس گذاشتن که ما وقت نداریم من بازم میگم تا زمانی که وبلاگت داری باید به مخاطبت وقت بذاری تحت هر شببهی یا آدم باید ببنده وقتی که وقت نداره باید ببنده چرا چرا باز میکنه؟ چرا پست میذاره؟ خب یا باید ببنده یا باید بره جاهایی بنویسه که نیازی به به قول معروف ریسپانس به نظرات رو اینا نداشته باشه. خب فکر نمی کنم. من رک بگم تو کل سرویس ها تعداد خیلی کمی. لاگ بودن که اگر برن تلگرام من اونجا دنبالشون میکنم حتی اگر برن کره مریخ من باز از اونجا دنبالشون میکنم ولی یه تعداد خیلی زیادی که اتفاقا بیشترشون بیشترون بلاگی که برن مریخ من دنبالشون میکنم اتفاقا خیلی هم مخاطب نداره و اون بلاگ هایی که خیلی مخاطبشون زیاده من فکر نمی کنم ارزش داشته باشه اینا انقد مطالبشون ارزش نیست به نظر من که بخواد مثلا توی تلگرام اینا نوشته بشه و این جمعیت رو به خودش بکشونه به اون سمت برای خودش ارزش داره ها. من حرف خودم رو نقض نمی هر کسی هر مطلبی می نویسه برای خودش ارزش داره ولی میگم اون مطلب اون پتانسیل رو نداره که اون افراد رو بکشونه به اونجا به خاطر این این که فکر میکنن که وقتی که این تعدادا بالا رفت یعنی چون نمیدونم قضیه چیه اه اه این اینو داشتم بگفتم که نمیشه وقتی که آدم وقت نداره خب میتونه یه سرویسی رو ببنده نیازی نیست که باز داره مطلب بنویسه اگر وقت نیست من چندین بار از خیلی ها شنیدم میگن مثلا به خودم میگم میگن آقای حاطف اگر وقت نداری تو مثلا نظر بدی چرا مثلا تو وبلاگ 20 نفر دیگه دادی یعنی یه نظر به من دادن اضافه وقت میخواست درجه میکنی خب این اینا ترخیه داستانه که من خیلی ها شنیدم نمیدونن نمی دیگه یه مقداری که تعداد کامنت بالا رفعی میکنن سیستم من شبیه همه تو اینستاگرام دیگه مثلا دید این شخصیت رو کپی میکنن که مثلا نوید و توی اینستاگرامش فقط توی کامنت ها پاسخ ها رو میده پاسخ مردم عادی رو نمیده پس ما هم دیگه سلبریتی شدیم دیگه وقتی که 80 تا کامنت گذاشتیم فقط جواب شاخا رو میدیم کسایی که دیگه مثلا دلایشون زیاد مخاطب نداره اونا دیگه به درد نمیخورن جوابشون نمیدیم سر بالا میدیم با غرور میدیم یا تو خصوصی چت بهشون میدیم میگیم که دیگه پیگیر جوابشون زیاد نباشد اینه این آفت این قسمت اینه و این تفکر بعدا به نظر من تا, تا ریسپانس کردن 1300 تا کامنت کار سختی نیست نینی تا 1300 تا کامنت رو به نظر من آدم میتونه پاسخ بده از چه نظر میگم؟ نمیگم که 1300 تا رو نظر گرفتم ولی خب من ادمین بودم ادمین فرمای مختلف بودم گاهن به خیلی تاپیکا جواب دادم اگر آدم اولین که 1300 تا توی یه لحظه داده نمیشن ما هیچ بلاگی رو نداریم که 1300 تا کامل توی یه لحظه بگیره خیلی بگیرن مثلا 80 تاست خب خیلی هم بخوان اینا رو ریسپانس کنن پاسخ دادن بهشون و خوندن وبلاگشون فکر نمی کنن. بیشتر از پنج دقیقه طول بکشه خب میانگینه دیم مثلا یکی ممکنه دو دقیقه طول بکشه یکی ممکنه مثلا هفت دقیقه طول بکشه که میانگین میشه مثلا چار و نیم پنج دقیقه حدودا وقت باید گذاشته بشه خب تا 1300 تا فکر میکنم اوکیه خب ولی نمیذارن دوست ندارن بذارم من میگم تا زمانی که این هست تو با یه روشی باید این ریسپانس رو انجام بدی من آدم وقتی وقت بذاره این هزار تا رو میتونه جواب بده چون اولا نیاز نیست همه یه لحظه جواب بده بله اگه بخوای همه هزار سی رو تو یه ساعت جواب بدی بله وقت نیست ولی اگه اینو پخشش کنی توی هفته راحت میتونی در ازای هر مطلبی که میذاری خب هشتاد تا میانگین هشتاد تا هزار سی خیلی فاصل است میشه کنترلش کرد و میشه کامل براش وقت گذاشت ولی خب افتخار نمیدن که وقت بذارن دیگه و یه بلاگر فکر میکنم میتونیم وقت بذاره ولی نمیذارن و به نظر من تو این سطح دارن شیپور رو از قسمت گوشادش میزنن میگن وقت نداریم ولی کارایم رو انجام میدن که نیازمند وقت اضافیه مثل اینکه که مثلا من دارم میدم پینگ پوین بازی کنم ولی میگم دو دیگه وقت ندارم مثلا دوستم که با من کار داره جوابشو بدم خب تو که داری پین پوین میری اوقات فراغت چطوری تو اوقات فراغت وقت اضافی نداری اینه دیگه شیپور رو از قسمت گشادش میزنن یکی از دلیلاش به نظر من این اینه دلیلش که اون غروری که کلنت آدم آدما وجود داره که فکر میکنم بقیه هیچی نیستن بقیه همون پامنبری ها بقیه همون بی سوادان که منتظرن حرف من زده بشه برای همین قابل احترام هم نیستن حتی اقل احتراماتو باید بهشون گذاشت مگر اینکه که ثابت کنن در سطح من هم. که اون وقت قضیه فرق میکنه که اینم آفت قضیه هست دیگه مثلا اگر من خدایی نکرده مثلا حالا سوادم اندازه باگیر نباشه حمالا باید برم بمیرم بیگه شما نظرم ارزش نداره. من نوعی ازشون انتظار ندارم پاشن بیان انترکشن با من داشته باشن تحامل اجتماعی با من کنن منو بخونن ولی دیگه بیمحلی و حضب نظر و توهین تو نظرات خصوصی و نگاه بالا پایین و بیان به بدترین و تهوع آورترین و ممکن یه تحامل اجتماعی رو خراب کنن و یه انترکشن رو برقرار نکنن دیگه خیلی این من دیگه انتظار ادقال این،, این کار رو نکردن دارم. که نیان این کارا رو بکنن مثلا نیان پاسخ خیلی ناجور با آدم بدن حالا آدم بچه مثال هم که زدم دیگه فکر کن یه نفری داریت خیابون را میری یه نفر میگه واو چل باز قشنگی پوشیدی بعد شما برمیگردی چپچت چپ نگاش میکنی میری یا مثلا هیچ, نگ... هیچ توجه ای نمی که انگار نگار حرف زده بهت یا مثلا یکی میاد میپرسه که آقا مذارت میخوام خیابون دکتر مصدق مثلا کجاست که شما در جواب میگه دهی بابا همه جا پرده عادی شده میذارید میرید این دقیقا همینه هیچ تفاوتی نداره تو با این حرفای من موافقید به نظر درسته؟ کاملا درست میگی متاسفانه از این برخورده خیلی زیاد شده آره ولی متاسفانه این نگاه ها هستش زیاد هم هستن وقتی میگیرم آدم تا 1300 تا نظر میشه پاسخ داد و خیلی وقت نمیبره برای اینکه خودم ادبین بودم این کار رو کردم من همیشه سعی کردم به همه اون تایمایی که وبلاگ داشتم به همه نظرات پاسخ بدم و همشون رو بی پاسخ نظرم نگاه از بالا به پایین نداشته باشم مگر تو نظر یه توهینی به من شده باشه یا من بی ارزش از اون نظر دیده بشم اون وقت قضیه فرداری، یه مقداری محتاطانه پاسخ میدم ولی همیشه سعی کردم با نهایت احترام و مهربانی و دوستی کار انجام بدن ولی خب بلاگرایی بودن که وقتی کسی نمیشناختشون تون اینا با کامنت کامنت های اسفه می کنید بقیه بلاگیر ها می دادن این با ها بعد که یه ذره تعداد نظراتشون رفت بالا، میصن بلاگر صفر نظر داشت. دقیقاً این اینستاگرام صفر نظر داشت. وبلاگر رو سوراخ میکرد بعد وقتی تعداد نظراش مثلا شد سی تا چهل تا 50 تا صد تا 200 تا دیگه بقیه رو محل نذاش و بقیه دیگه براش بی‌ارزش شدن و هیچ گونه ارزشی دیگه برای نظر نظر چرا؟ به خاطر اینکه اولاً داره به وبلاگ بیه فنی نگاه میکنه یعنی وبلاگ رو تبدیل میکنه به ابزار برای دیده شدن پس درک نمیتونه بکنه احساساتش رو احساسات این قضیه متوجه ای؟ تو توان سلبریتی هستی رو نمیکنی؟ نه با چه سلبریتی من, من سیستم ادمین بودم خب سایت هایی بودش که اون زمان خیلی توش فعالیت زیاد بود و خب ما مجبور بودیم که رو کنترل کنیم حالا از بحث جدا نشیم داشتم اینو میگفتم که اینا این قضیه رو ابزار می‌بینن دقیقاً مثل اینستاگرام اینستاگرام چیه طرف میاد نمیگه این یه شبکه اجتماعیه که من میتونم رو با دوستان به اشتراک بذارم و نظراتشون رو بگیرم میاد میگه یه ابزاریه که من به هر روش ممکن باید توش فالوور جام کنم دیده بشم تا بتونم مثلا تبلیغات کنم پول در بیارم یا بتونم به بقیه فخ بفروشم یا حالات دلشه میاد اینو ابزار نگاه میکنه. نمیاد بگه من یه بلاک میسازم دوستای جدید پیدا میکنم اطلاعات رد تو بدل میکنم و با آدمهای جدید آشنا میشم کارهای جدید میکنم نه اینطوری طوری نمیبینه میاد این بلاک یه ابزار نگاه میکنه و در راستای این ابزار بودن این قضیه هم حرکت میکنه پس نتیجه میگیریم که این هر کاری به از این سیستم و انجام میده و ضرر میزنه به اجتماع سیستم مثلا نمونش دنبالم کن تا دنبالت کنم بعد یه سری وبلاگایی که اول اسپند میزنن وبلاگ ها رو سوراخ میکنن با اسمم هاشون بعد از یه مدتی که تعدادشون رفت بالا شناخته شدن یکی رو محل نمیدن انگار ننگارین همون آدم یه سال پیش بود که روزی 20 بار نظر میزاش کچل میکرد آدم و و که شناخته بشه که آدما بیام بخوننش. توجه میکنی ابزاری نگاه میکنه بعد اون کسایی هم که نظرات رو براش میذارن نظرات رو به عنوان دیدگاه بهشون نگاه نمی کنه. به عنوان عدد فقط براش عدد مهمه سیت تا گرفتم چهل تا گرفتم مهم این چهل تا چیه مهم که چهل تا گرفته برای اینه که این رو به صورت ابزار نگاه میکنه بعدم بازم به حرف خودم تحکید میکنم من نمیگم چرا بقیه چطوری رفتار میکنم به من رفتی نداره تعریف بلاگ و بلاگستان رو گفتم وقتی که ما یه اجتماع تشکیل دادیم اون وقتی که به من نوعی رفت پیدا میکنه چرا؟ چون ما اینجا اجتماع تشکیل دادیم وقتی که یه شخص جدیدی وارد میشه این رفتار رو میبینه و فکر میکنه واقعا رفتار مناسب بلاگستان همینه آدم باید همینطوری رفتار کنه آدم باید اینطوری فالو به جمع کنه آدم باید مطلب کنه اینا رو یاد میگیره و ما اینا فرهنگ عوض میکنن اینا باعث میشن تفکر عوض شه پس من بهش نقدارم و میگم آفت این قضیه ایناست و هر کسی مسئول صفحه خودش و خب مسلمان به من ربطی نداره و هر کسو خودش میدونه که با مخاطبش چطوری رفتار کنه و مخاطبم خودش عقل داره میتونه کامل تصمیم بگیره که چی رو بخونه چی رو نخونه و اصلا دنبال کنه نکنه ولی این اتفاقی که میفته اثرات خیلی زشتیه که این آفت ها ایجاد میکنن آفت میگم این ادمو آفته دارم میگم این رفتار که رفتارای آفته که وارد این قضیه میشه و اینو آفتهای این, آفت این اجتمان و این اجتماع رو به اون سمتی حرکت میدن که نباید باشه من این نوعی هم که دارم با همه دوستی میکنم وقتی ببینم 20 نفر دارم صفه بازی با من میکنن منم یواش یواش سوخت داده میشه منم صفحه بازی میکنم وقتی که می بینم مثلا یه نظر بلند میدم یه نظر بلند بهم من چه می میدونم فالو میکنم فعالو میکنه منم اینطوری میشم این تأثیره که رو اجتماع گذاشته میشه پس آفت من باش مخالفم و اینجا دیگه میتونم قضاوت کنم اینجا میتونم تذکر بدم و بگم آقا رفتار داشته داری اثر منفی روی جمع میذاری ولی نمیتونم بگم تو حق نداری با مخاطبت این توی رفتار کنی چون در نهایت من رو نمیخونم ولی اثری که رو محیط میذاره رو منم تاثیر میذاره و اون آدم اینجا مقصره. کسای جدیدی هم که میان میخونن و اصلا کلا وارد این دنیا میشن چون این آدما رو میبینن چون زیاد چون این آدما تاثیر گذارن دیگه طرف 80 تا کامنت داره 90 تا اینا بیشتر دیده میشن مثال 80 تا رو میذنم ما مثلا طرف 300 تا کامنت داره یا چه میدونم این اینا دیده میشن زیاد پست میزنن دیده میشن میان بالا خب همه اینا رو میبینن و فکر میکنن آدم باید اینطوری باشه آدم باید نظراتو چرتکه نظر چرتکه حساب چه میدونم نظر قرار نیست کسی رو اصلاح کنه نظر قرار نیست ایده بده نظر فقط چرتکاسیه ده نفر اومدن نظر دادن اینطوری تفکر میکنه بعد بلاگرای خیلی خوبی هم داریم که روی 80 تا 90 تا نظر میگیرم ولی نمیان اینو فرهنگ سازی بکنن متاسفانه انگار خوششون نمیاد که یه چیزی رو که میدونن میدونن درسته این رو نشر بدن یاد بدن و فضا رو درست بکنن نمیکنن این کارو و داره میبینیم که به این سمت ترکت میکنیم که خود سیستم داره خودش رو نابود میکنه آمل بیرونی وجود نداره کسی که تازه وارد میشه فکر میکنه بلاگین یعنی همین و بلاگ باید یه شاخت داشته باشه تعداد نظراتش باید بالا باشه هرکی بیشتره نظراتش گندهتره، همین باعث میشه که دیگه سمیمیت کاملا از بین میره سمیمیت میمیره میشه همین وضعیت. بعد آدم های جدید میان. هیچ تضمینی وجود نداره یه آدمی که امروز اومده داره مینویسه ارزش نداره یه آدمی که اومده داره مینویسه کوپی میکنه تا ابد همین میمونه نه خود من یه یعنی نمونه کوپیکون بودم امروز دارم بهترم مینویسم فردا ده سال دیگه بهترتر از امروز میشم از کجا معلومه کسی که امروز داره کپی میکنه دستال سال دیگه یه آدم موفقت این رشته نشه. وقتی که این شرایط هست این اونطور یا پس زده میشن یا یه کسی میشن مثل خودمون و در نهایت محتوای فارسی از بین میره. میاد قربانی یه سری حرکتای اینطوری میشه. چون که اون جدیدا هنوز نتونستن خودشون رو وقف کردن. بعد همین مجموعه این اتفاق باعث میشه خود من جرات نکنم کسی رو نقد کنم چون همه غرور دارن یه چیزی میگی زود عصبانی میشن راه بحث و بستن نمیشه خودشو دانه کل میدونن و بقیه حرف مفت میزنن و من چندین بار چند نفر رو نقد کردم جوابای خیلی بدی گرفتم و آره माफ کنم بر خودم پشیموندم که مثلا یه موقع نظر مخالف دادم همتون وبلاک نظرت بدی را جوابم گفتن هم خود بلاگر بهم به توهین کرد بعضی, بعضی وقت هم، اومدن تو وبلاگ خودم و ناشناس و شناس جواب به اون به بر همین آره واقعا جرت نمیکنی و یا نظر بذاری اثرش هم بعد میشه کللا کسایی که تازهید وارد وبلاگ میشن و یه جورایی زدم خب خیلی بده بعد همین ترس نظر دهنده خودش دوباره دامن میزنه به مرگ بلاگینگ چون کسی که فیدبک نگیره حمایت نشه به قول معروف انرژی از این کار نمیگیره و به نسبت دل سرد میشه، انگیزه نمیتونه بگیره از نظر چون نظری نیست، دل سرد میشه و قضیه رو ویل میکنه، ضعیفن زده میکنه. من خیلی یارو دیدم که خداحافظی کردن، هر چه آدم کردن بر علتش رو پرسیدم، دقیقا اشاره کردن که بقیه دارن خشونت میکنن کسی مطالب منو دوست نداره کسی منو نمیخواد و خدافزی میکنن یا برمیگردن اینستاگرامشون یا دیگه نمی نویسن کلن فضای وبلاگ یه فضای تولید و توادل اطلاعاته یه نفر می نویسه تا یه تعدادی از افرادی اطلاعات از این اطلاعات که داره انتفاع داشته باشن این اطلاعات هر چیزی میتونن باشن هر بلاگیری آزادی کامل رو هم در رابطه با این قضیه داره اما چون ما داریم توی محیط توی اجتماع داریم این کار انجام میریم این که اصول اخلاقی هم باید براش وجود داشته باشه بله هیچ کسی نباید همه نظرات رو جواب بده خب یعنی کامل خودکشی کنه ولی دیگه اخلاق و دوستی و احترام گذاشتن به همه یه چیز کاملا طبیعیه خیلی کار سختی نیست اذیت کردن بقیه خیلی کار سختی نیست اون که نفر انتقاد میکنه جوابش رو با فوش میدی چه میدونم پامن بریات هم میفرستی اونجا که بهش توهین بکنن این دیگه خیلی سخت نیست که این کار نکنی انتقاد کرده جرم که نکرده یا باش مخالفی یا موافق مخالفی بحث کن. موافقی تایید کن اگر حوصله بحث کردن نداری صرفاً ردش کن بگو دوست ندارم بحث کن. یه نیاز نیست به آدم بفرستی فرش بدن البته بعضاً عمدی نیست خود پامنبری شور می و حمله می کاملا کاملاً دورست می از این برخورد خیلی زیاد شده که همه رو دارن فراری میدن خودشون میان میگن چرا کامنت ها کم شده چرا ببلاگ نویست کم شده خودشون با ر... بیانم مغصره که با بلاگ برتر یه فضای رقابتی خیلی فضا رو چیز کرده کسیفه و به هم زنده حال به هم زننده کرده که ما بلاگ برتر یعنی چی من نمیفهمم یعنی عملا داره به همین سمت میکشه خودش این سیستم داره میکشه. بعد این کامل تعمیم داده میشه به همه. بعد این اتفاقات میافته این غرور های خششون نتا ها بعد آمار پای میاد کسی نمیاد به خونه محتوی خوب تولید نمیشه چون نظر خوبی وجود نداره اطلاعات خوبی رد و بدن نمیشه غرورها باعث میشه فشار و بیاد بیادن نهایت مسیر به این سمت کشیده میشه که، اونا همیشه به سمت مرگ حرکت می‌کنه بعدم هم همینا میان پست می‌زنن که آقا بیاین نجات بدین آقا بیاین دستشو بگیرین بعدم من سنگ خودم رو به سینه نمی‌زنم من باز اشاره به اجتماع می‌کنم اثر منفی آدم نباید روی اجتماع بذاره بعد همیشه اثر مثبت بذاره با هم دیگه باید دوستی بکنیم یا اون کارا رو نکنید یا این پستا رو ننویسید آدم نمی‌تونه هم سر کسی رو ببره هم به حالش به حال این کید داره سرش بریده میشه گریه کنه یا گریه رو نوبت بکنه یا سره رو نوبت ببره ادامه نده اون سر بریدمه رو و خب خیلی هستم مثل من کلافتم که زیاد اهمیت نمیدم ولی خیلی راحت این قضیه رو ول میکنن بعدم میگم هر چقدر تعداد نویسنده کمتر باشه به زرار ماست این که حمرو حذف کنیم اول خودمون باشیم کاملا به ضرر قضیه است و در کوتاه مدت شاید سودشو ببریم نفر اول بشیم حال کنیم ولی تو طولانی مدت متوجه میشیم که چه ضربه بزرگی به خودمون وارد کردیم آره ولی نظرات اسپمی هم خیلی رو مخند بعضی هاشون آره این اتفاقات باعث میشه که فضا سرد بشه فضا مسموم بشه محتوای فارسی بره تو حاشیه‌های عجیب غریب این خ... سری اتفاقات و یواش یواش قربانی این چیزای کوچک بشه اسپامینگ هم دیگه ایرادات فنیه باید راجبش فرنگسازی بشه باید, باید گفته بشه که آقا با سوراخ کردن وبلاگ نمیتونی مخاطب جذب کنی هر چیزی راه خودشو داره ولی خب اینا فنیه دیگه باید فرنگسازی بشه من توی یکی از گفتگوها هم اینو بهش اشاره کردم که کسایی که تازه از راه اومدن فکر میکنن قضیه رو کامل گرفتن بلد شدن و همش همینه بعد هر چیزی که خودشون فکر میکنن درسته رو تجزیه و قضیه میکنن مثلا میان فرانسازی میکنن فقط های ادبیاتی وبلاگن بقیه دارن چرت و پرت می نویسن آقا تو کی هستی که چی میگن اندازه میذاری و لول میذاری که کدوم وبلاگ خوبه کدوم بد همشون ارزش دارن هر کسی که می نویسه ارزش داره. یکی تخصصی می نویسه راجبه عدبیات، آیتی، موسیقی، هرچی. یکی غیر تخص... تخصص منظوری نیست که تخصص برده بالا ها نه. یعنی مثلا خاصا روی یه چیزی تمرکز داره. یکی هم تخصصا روزانه می نویسه. تخصصا تویت نوشت می نویسه. تخصصا جوک می نویسه. توجه می‌کنی؟ وی بلوگای... جو... تخصصی جوک داریم هستن تخصصی روزنوش داریم چرا نداشته باشیم منظور از تخصص اینه ولی خب همین دیگه میان فیلم کنم قضیه رو برات شدن دیگه مثلا به بقیه میگن اسپامینگ آشکال نویس، خال زنک ایراد میگیرن اولین که ما باید اینو بدونیم که مطالب بقیه به ما ربطی نداره رفتار بقیه هم به ما ربطی نداره اگر داره رو اجتماع اثر منفی خب اگر یکی داره میاد توهین کردن تو پوست رو می نویسه و داره اینو رو میکنه که اصلا وبلاگ نویسی یعنی بیای پست فوش فوشت بنویسی اون وقت باید بری گیر بدی ولی وصلی طرف داره برای خودش کارشو میکنه دیگه به کسی ربطی نداره ولی خب هستن دیگه میان فکر کنن قضیه رو بلدن بعد یه تعریف های خودمند در وارد میکنن فقط هم میگن همونه بعدم هم تازه وارد قضیه رو نمیدونه فکر میکنه همین درسته بعد منم چی میگنین فضا به این سمت پیش میره بعد مشکل من این نیست که چرا اینا این مخاطب ها دارن اونا رو دنبال میکنن چون مخاطب کاملا آزاده من به آزادی کاملا نظرم مثبته ولی ترام میگم مشکل فرهنگی یه سنگ بنایی رو دارم میزنن که تا یا میخواد کج بره حرف من اینه درسته شاید اصلا همین رفتارهایی که قبلا بوده اعلام نمیسی رو به اینجا رسونده شاید آینده وبلاگ نمیسی خیلی بدتر از این قراره بشه دقیقاً دیگه سنگ بنایی که اینجا داره گذاشته میشه در آینده ما ضربه هاشو ضررهاشو میبینیم همین وارد کردن فرهنگ اینستاگرامی که بیانم خودش مقصره به خاطر اینکه اصلا امکان دنبال کردن نباید وجود می داشت. آره برای راحتی کار آدم میاد یه فیدی رو برای خودش درستتون می کنه اون فید رو شروع میکنه دنبال کردن. برای اینکه اینکهتونندتون تو مرورگر باز نکنه اذیت نشه رو فید دنبال میکنه وقتی که پست جدید اومد قضیه رو سریتر پست و مطلب رو نگاه میکنه میخونه. ولی اینکه این امکان اومده وقتی که فرهنگش رو ساخته نشده امکانش اومده، دیگه خیلی محیطو خراب میکنه به هم میزنه دیگه بلاگو میکنی اینستاگرام هر روز داره میبینیم دیگه فالو کن فالوت کنم کن ایه بنده خدایی بود که هر زیر هر پست من دو تا سطر کامنت میذاشت که منو فالو کن منو فالو کن منم محترمانه جواب دادم که میخونم اگه خوشم اومد فالو میکنم که برگشت گفتش که اصلا نمی‌خوام فالو کنی و از این حرفا بعد منم اعلام کردم منم گفتم که خانم لطفا دیگه واسه من کامنت نزار که این خانم هر چی تونس بهم گفت و چند نفر رو علیک من شوروند خلاصی یه اوضاع خیلی شد بعد این دیگه وارد یک چیز عجیب قریبی میشه که دیگه در داغون میشه فکر می‌کنی که اصلا اینو چطوری میشه حلش کرد چطوری میشه اون قضیه فالو کردنو جو که با این قضیه چیز قشنگیه چما دارید ازش استفاده بعد میکنید من نمیتونم پیشنهاد کارو شناسی بدم ولی کاری که خودم میکنم اینه که معمولا میگم باشه سر میزنم خوش اومد دنبال میکنم و کلا فالو فالو بک این کارا رو انجام نمیدم شاید اگه انجام ندیم یه سر کمتر بشه بعدم ویبلاگ نمیسی در این عشق و کلی فلسفه و اونجور چیزا که پشتش هست یه تعریف خیلی ساده داره یعنی یه جایی که آدم توش مینی ویسه و اطلاعرسانی میکنه. مثل روزنامه. انگار آدمی روزنامه داره. بعد فرض کن آدمی که همیان سوراخ میکنه، این بفرستن که بیاد زنگ خونه بزنه زنگی روزنامه منو بخواد. روزنامه من بخواد. آره. باد که روزنامه من بخواد تا روزنامه تو بخرم. باد بهشون توضیح داد. من من مشکل من اینه. مش متأسفانه مشکل من اینه که اگر یه محتوای تولید میشد، ما شاهد این وز نبودیم. بلکه خب محتوای تولید نمیشه حاشیه زیاد اسپم هم که از اون طرف سیخونکش میزنه فکر میکنی چطور میشه جلوشونه گرفت شاید بشه با آموزش جلوشه گرفت که یاد بدیم مخاطب رو باید جذب کنی با نویشتهاد نه با التماس و درخواست و خواهش به نظرت فکر نمیکنی بلاگرهای قدیمی هم داری مقصرن وقتی که تو این را تراشی نشده آموزشی داده نشده همین وزن پیش میاد بلاگر تازگار که خیلی زیاده ولی بالاخره یکی باید اینا رو به راه درست بیاره دیگه این بلاگیر هر جا میرن با بیهترامی روبرو میشن میره یه جا نظر میذاره من رو دنبال کن تا دنبالت کنم. یا رو میگه برو گم شو خب مسلمان به کارش ادامه میده ولی اگه بیاره بگه آقا راه درستش این نیست بیا من راهش بهت یاد بدم این کار باید بکنی این کار باید بکنی ولی وقتی که طرف میاد نظر میذاره یا یا چه میدونم؟ من من خودمم این کاره کردم من اعتراف می کنم که من خودم هم بعضی وقتی که حال حوصله نداشتم از این که اومده پاک کردم بدون که جواب بدم منم مقصم وقتی که طرف میاددون می نمیویشه بدونی اینکه آموزش بگیره به احترامی رو برو میشه نظرش حذف میشه جواب داده نمیشه همینو ادامه میده بعد براشون یکی وقت بذاره ما ماشاءالله بلاگرای خیلی پرمددایی هم داریم که کلا میشه وقتی برای اینطور مخاطبونشون نمیذارن اصلا مخاطبینشون اینطوری به حساب نمیان اصلاً عدد عددی نمیذارم و به نظرت فکر میکنی میشه بهشون تذکر داد یا باید ولشون کرد بار خودشون آره به نظرم بلاگ نویسای خیلی مقصرن چون اونا این راهو رفتن باید بیان کمک کنن دستشون رو بگیرن راه و روشش رو بهشون یاد بدن م. بعد تذکر داد نه نه نپد رهاش کرد اگه رها کنیم بدتر میشه بعد تذکر بدیم البته تذکر مهربانانه و دلسوزانه درسته با موافقم بعد متاسفانه هر شکم طور که حس کردم در سیستمی سایت بیانم به این مشکلات دوغم میزنه برای مثال معرفی وبلاگ برتر فضا را از دوستانه کاملا خارج می کنه من خیلی دیدم مردم بال بالبال میزنن که برن تو اون لیست و فضا کامل رقابتی میشه همین بلاگر تازه برای من مهم نیست که تو لیست باشم یا نه ولی بلاگر تازه بالبال میزنه و خیلی‌ها رو دیدم که ادعا کنم 15 ساله 16 ساله اصلا 25 ساله دارن می‌نين امروز زمانی که وبلاگ هم وجود نداشت اینا بعد بالبال میزنن که برن تو اون لیست توی فضای رقابتی محتوی فارسی قربانی میشه دقیقا مثل این کسای میمونه که فکر میکنن به خودشون چی میدن مدیر تولید محتوا بعد اینا میان برای اینکه تولید محتوا زیاد چون داره برای محتوا درست کردن پول میگیره پس بیشتر محتوا درست کنه که بیشتر پول بگیره پس این فضای رقابتی پس این تولید محتوای بیشتر و هر و ولع برای تولید بیشتر میشه که خود محتوا قربانی بشه این فاز رقابتی هم همین کار میکنه طرفو پست زیاد زدن با این نظر رد و دل کردن میخواد رقابت برنده بشه بره تو اون لیست محوای فارسی اینجا قربانی میشه سال 86 87 میگم که هنوز بیانی وجود نداشت با عزیز شیرازی یه مصاحبه ای یه مجله ای که از عزیز شیرازی مدیر بلاکفا پرسیده بود ازش که چرا بلاکفا قسمت وبلاگای برتر نداره و مثل پژیام بلاگ به بلا بلاگرای برتر مراسم نمیگیره جایزه نمیده. پرایز شیرازی یه پاسخ خیلی خوبی داد اون موقع که گفتش که این حرکت خیلی خنده داره. ما کجای دنیا یه سایتی به کاربراش جایزه میده؟ الان مثلا فیسبوک، به کسایی که بیشتر پستشون بیشتر لایکو گرفته هر سال جایزه میده. خیلی جواب منطقی. این جور کارا فضا رو از حالت دوستانه و صمیمی نه تنها جدا می‌کنه بلکه باعث به وجود اومدن باگ میشه باعث میشه که مردم فکر کنن برای رسیدن به این هدف به این اول شدنه و به رفتن نیست دیگه به هر کاری دست بزنم از نظر اسپم گذاشتن شما بگیر تا برو بغیش می اصلا چه ایرادی داره وقت بذاریم بهشون یاد بدیم کمکشون کنیم بگیم این کارو کن اون کارو بکن مثلا ایرا های اینجاست یا به نظرم این کارو بکنی بهتر کرد. دقیقا دقیقا خود منم کاملا با موافقم مثلا خود من وقتی که وبلاگو شروع کردم کپی می کردم بابراتون نمیشه میرفتم که از می کردم یه سری سایت های بود اون زمان که الان خیلی کم شد اصلا نیستش که نه فقط مطلب میذاشتم مثلا دانلود میذاشتم. من فقط آن رو کپی می خب. اون موقع من فقط کپیگر حرفه‌ای بودم ولی یواش یواش آدمایی که اون محیطم بودن اول به مطالبم احترام گذاشتن بعد به خودم احترام گذاشتن نظر می‌دادن بعد یواش یواش با کاملاً مهربونی بهم به یاد دادن که من باید چیکار کنم بعد یواش یواش منو تربیت کردن که باید چطوری تو این فضا فضا, فضا دیدم خیلی سطح بالاست و من باید چه رفتاره اینجا داشته باشم راهم خب خیلی به من کمک کرد. بعد یواش یواش مثلا من می رو می‌رفتن می‌پرسیدن چطوری عکس بذارم رو وبلاگم، طرف نمی گفت برو گوگل کن بی سواد. طرف با حوصله جواب میداد. آره، برو گوگل کن خیلی سوال پاسخ مناسبیه. خب، ولی بابا طرف سوال کرده تو سوال رو جواب بده دیگه اتفاق برات نمیفته. من مثلا سر بالا جواب بدی، مثلا دل طرفو بشکونی که فقط سوال پرسیده چطوری من میتونم وبلاگم عکس بذارم. توجه میکنی، اینا اومدن به من یاد دادن همینا رو، بعد اومدن پیشنهاد دادن، یکی یکی، مثلا من اومدم گفتم چطوری این قرمز و آبی کنم، طرف اومد گفت اینطوری میتونی یواش یواش کود نویسی رو یاد گرفتم، بعد اومدن پیشنهاد به من دادن گفتن که چرا خودت نمی نویسی؟ تو مثلا در آن کپی کردی این مسئله رو، خب، تو شاید خودت بنویسی بهتر بنویسی، بعد من اون زمان خب زبان گریسی میخوندم بعد یواش شواش رفتم مطالب رو از وبسایت ها میخوندم بعد خودم میومدم با قلم خودم اینو رو مینوشتم توضیحش میدادم بعد از من حمایت میشد بعد یواش شواش گفتم وقتی که تو از یه جای ایده برداشتی مثلا یه متن رو داری دوباره توضیح میدی ولی عین متن همونه توضیح تو اینه متن اولیه است بعد زیرش یه منبع بنویسی بعد بهم یاد دادن اصلا منبع ذکر کردن یعنی چی منبع باید ذکر بشه اگر منبع ذکر بشه به قول معروف اون سندیت وبلاگ تو بالا میبره یعنی وبلاگ همینجوری هر دمیلی حرف نمیزنه اگر منبع بنویسی وبلاگت قوی‌تر دیده میشه اصلا خودت شروع کن بدی ریسا اینا من یهو الان اون به قول معروف گلی که میچرخه روسو فالگری اونقدر چپ و, راستم و فشار دادن کشیدن منو به قول معروف چیز کردن که تا در نهایت رشد کردم رسیدم به اینجا بعد بعد از دوازده سیزده سال دارم اینجوری می نیبسه. من نمیگم الان دیگه اوکی هم تموم شده نه هنوز جا برای پیشرفت هست هنوز جا برای بهتر شدن هست حبت من که اینطور رشد کردم همیشه سعی کردم همه رو آموزش بدم موفقم شدم توی چالش همین وبلاگ نویسی که گذاشته بودن بود یکی اومد گفتش من میتونم شرکت کنم یکی بود که اول اسپم بود کامنت اسپم میداد هم مطالبش کوپی بود خب، من به جای که بهش گیر بدم رفتم گفتم بیا از خودت بنویس شروع کن خودت مطالبت رو بنویس اسپم نکن راش این نیست اون نمیخواست آمارشو برای بالا خب بعد وقتی که من اینا رو بهش یاد دادم دیدم ویبلاگشو منظم ترک کرده کمتر کوپی میکنه و بعضا از خودش می نویسه یعنی من یه چیزی رو اینجا شروع کردم شاید مثلا از ده تا پستی که میزنه دو تاشو خودش می نویسه باز هشت تاشو کپی میکنه ولی یواش یواش دوتا تا میشه سه تا اونم به خاطر سن نشه مثلا سیزده سالشه چهارده سالشه هنوز اونقدر نمیتونه بنویسه خب یواش شباش این تعدادش زیادتر میشه میشه یه بلاگر واقعی و وقتی که من پست چالشش خوندم نوشته بود که علت اینکه داری این راههای دامنیدی چیه و اون اسم منو گفته بود خب خیلی انرژی مثبت اصلا خیلی خوشحال شدم البته هنوز وقت نکردم برم حسابی ازش تشکر کنم بهش انرژی بدم ولی همین باعث میشه که به من انرژی بده و باز ادامه بدم این کارو بعد اینو گوش میدن وقتی که من اینو دیدم خستگی از تنم رفت در رفت اینو گوش میدن واقعا اینا اگه ببینن یه نظری با احترام بهشون گفته میشه و نظر درسته گوش میدن چرا ندن ولی ما ما استاد زیاد داریم که در محیط وبلاگ نیمیسه که وقت دونه نیشیشون ندارن که بقیه بابلکی رو محل بدن چه برسه به اینکه که تازه کارها رو مثلا بیان چیز بکنن فضای تلخم به قول معروف معلول این خود برتربینی هاست دیگه اینا این اساتید که فقط فکر میکنن کار خودشون درسته ما اینطوریه فقط ایراد می‌گیرن تو تو خفه شو یعنی تو تریبون نداشته باش چون بلد نیستی حرف بزنی نمیان یاد بدن چطوری پشت تریبون درست حرف بزنین تریبون می‌گیرن دقیقا همینه ما به همچین چند کسایان یعنی خیلی احتیاج داریم آره موافقم اگه ما کمک کنیم به بقیه مسلماً فضای بهتری درست خوشحالم که با موافقی خب تو یه گفته به باند اشاره کردی میشه بیشتر توضیح بدی خب الان یه سری از بلاگرها با هم تالی باند رو و در صورتی میتونی باهات خوب برخورد میکنن که جزه خاننده اونا باشی حتما یا باند رو دامن بزنی تعریف کنی مدام ازشون اگه جزه باند مخالفشون باشی یا باند رقیبشون جوابت رو نمیدن یا باهات بعد برخورد میکنن یا ندیدت میگیرن خیلی بعد اینجوری بعد معمولا بقیه که نوپا هستن تازه بارش رو میکنن خودشونو رو به یکی از این باندا ها تا مخاطبای اونار رو جذب کنن یا اینجوری معروف بشن خوب نیست به نظرم فضا رقابتی شده بعد بیشترم تولید محتوی نمیشه معمولا میاد خیلی مستقیم به اون به گروه رقیب تنه میزنه اونا به این یه جورایی گفتم که دوای قبیله یه چیز جالبی یعنی این باندا از قبل پیش‌بینی شده اند و با هم هماهنگ اند یا نه و می‌دونن باندن یا نه اینطوری نیستش همینجوری با تشکیل همینجوری ناخودآگاه تشکیل شده به نظرم می‌دونن باندن ولی گردن نمیگیرن میگن نه ما با همه دوستیم ما با کسی مشکلی نداریم باند نیستیم اینا فقط دوستای صمیمی‌ن از این حرفا درسته البته من فکر نمی‌کنم که باند تشکیل داده باشه به نظر من این سری بلاگیر ها که سریغشون که با هم شبیه هست با هم دوست شدن و یه باند ناخداگاه تشکیل دادن چون اگر واقعا اینطوری باشه که پشت سر یه باندی وجود داشته باشه که دیگه فضا دیگه واقعا مسمومه و دیگه اینطوری سیستم به طور کامل نابود میشه و دیگه اصلا نمیشه روی اجتماعی بودن ویبلاگاه حساب کرد چون هرکی با یک قبیله تپه خودشو داره و خب خیلی بده در صورتی که وبلاگ شبکه ای نباشن از همدیگه حمایت نکنن محکوم به مرگن مخصوصا تو این شرایط عجیب قریب و واقعا نمیدونستم که فضا اینقدر مسموم شده واقعا جای ناراحت کننده است آره شادم و باندشون با شده اما باندیشون ناخدابه تشکیل شده ولی خودشن هم پیش دامن می زنن برن زنگان. <تصفح> درسته و خیلی نارحت کنن نسته که اینکوری باشه سور و منم راقص من از اول تو مؤالای عجب حلوه قمدیتا امیر بیگزندیتا عجب ماه بلندیتا که یک دون را دگردانی نمیخوام زیاد باش با هم بحث کنیم به این قضیه بیشتر از این فقط به عنوان یه دوست و یه کسی که کلن فکر میکنم 16 ساله 16 و نیم ساله که دارم از اینترنت استفاده میکنم یا 17 ساله شاید به عنوان یه کسی که دیگه واقعا خیلی اینترنت رو میشناسم 17 سال کم نیست خب و خیلی ف... بیشتر فعالیت هم توی اینترنت بوده خیلی تفاوت از بین این کسی که صرفا زن... توی زندگیش در روز حالا به خاطر کارایی که داره گذری به اینترنت سر میزنه با کسی که کلن با اینترنت کار میکنه توی اینترنت هم زندگی کرده یعنی بیشتر کارش و بیشتر وقتش توی این فضا سپری شده حرض میکنم که خیلی این کار حالا امیدوارم که ناخوشاگاه باشه و کسی پشت سر برنامه‌ای و به قول معروف پیوند برادری پنهانی امضا نکرده باشه و همش با با به خاطر شبی بودن سلیقه به وجود اومده باشه امیدوارم که اینطوری باشه من پیشنهاد میکنم که این رو من بهشون نقد دارم و این نقد برادرانه و امیدوارم که منو در حدی بدونن که به حرفای من گوش بدن فکر کنم که بهتر یه مقداری به خودشون بیان خودشون بشینن فکر کنم ببینم واقعای رفتارشون درسته اگر با کسی کدورتی دارن یا این کدورت رو حل کنن یا فقط کدورت رو مختص خودشون نگه دارن و دیگه این رو تحمیم به بقیه دوستاشون ندن برای مثال وقتی که من با شخص ای مشکل دارم من با شخص ای مشکل دارم دیگه شخص بی نباید تو این قضیه دخالت داشته باشه حالا بیشتر الان که دارم این حرف میزنم فکر کنم باز بخوام بحث بکنم با مهمون عزیزمون ولی به عنوان برادر کوچیکتر جمع اگر حساب بکنید به شما عرض می‌کنم که خیلی قشنین که محیط دوستانه باشه خیلی قشنین که ما به همدیه کمک کنیم هوای همدیگه رو داشته باشیم و خیلی توی تصمیمات و کاره همدیگه دخالت نکنیم درست و استانداردش اینه که اگر من با شخص ای مشکل دارم باید مشکل بین من و اون باشه دیگه پخش بین بقیه نشه در صورتی که من خودم هم به نوعی تجربه این باند رو داشتم یعنی رفتم برای کسی نظر گذاشتم و توسط چند نفر دیگه حالا بایکوت شدم یا به اسطلاح و توی کامنت های خصوصی خب کامنت رو گرفتم که خیلی ناراحت کننده بوده یا یکی از دوستای عزیزم که دیگه نمی نویستمون برای من بیشتر توضیح داد که توی یه مدتی که حالا می نوشته توی نظرات خصوصی مثلا بهش می که فلام وبلاگو لینک بکن یا نکن خب این خیلی این اتفاق قشنگ نیست فضا رو وقتی که از حالت خارج بکنی اون فضا دیگه به سمت مرگ نزدیک میشه بیشتر فرومای اینترنتی هم اگر به مرگ نزدیک شدن به خاطر همین حاشیه هاشون بوده و حاشیه ها شو باعث شده که این فروم‌ها از هم دیگه بپاشن و دیگه امروز عملا ما یه فروم خیلی قدرتمندی نداریم که فعال باشه مگر اون فروم تخصصی باشه فقط فرومای امروز موندن و دارن فعالیت میکنن که تخصصی هن و دیگه تو حاشیه نرفتن. اکثر فرومایی که تو حاشیه بودن همشون محکوم به فنا بودن و به فنا هم رسیدن و دیگه ما نمیبینیمشون. بهتره که همه با هم دوست باشیم، همه همدیگه رو دوست داشته باشیم. و اگر با کسی مشکل داریم، دیگه این مشکل شخصی بین من و خودمون و اون کسی باشه که باش مشکل داریم و سرک کنیم با همدیگه دوست باشیم سرک کنیم به همدیگه احترام بذاریم به خواستای همدیگه احترام بذاریم و بهتره که من پیشنهاد میکنم که این رفتارها رو این عزیزان کنار بذارن و کیف کنیم با همدیگه با مطالبمون با دوستی بیشتر. بیشتر حرفم همین بود خیلی ممنونم اگر که افتخار میدید اصلا همچین گفتگوی رو گوش میدید این پیشنهاد من رو هم بهش گوش بدید. حال این هستش که آیا ایدئالی برای وبلاگ داری؟ آیا هدفی داری؟ آیا ووساس بهخرش میدی؟ کلا ایدئالت برای وبلاگ چیه؟ ایدال خاصی ندارم کلا هم ندارم خیلی راحتم تو وبلاگم نمیدونم این راحتی و مخاطبم هم حس میکنه یا نه؟ سر میکنم چیزی که تو ذهنر بنویسم میزیاد واس بهخرش نمیم که وای الان رژ بد فکر میکن یا ممکن چی فکر کنن. هدف خاصی که دوست دارم بعدم بتونم از وبلاگم یه کتاب بنویسم میدونم نوشتم هنوز به اون صد نرسیدن ولی ایدالم اینه که اول وبلاگم به یه سطح خوبی برسه که بعد بتونم از طریق وبلاگم به مرحله کتاب برسم خیلی خوبه درستشم هم همینه چون وبلاگ مال توئه و خوب این راحتی خیلی خوبه که آدم راحت باشه و برات آرزوی موفقیت میکنم و آرزو میکنم که کلن سطحشو دوست داشته باشی و در نهایت به آرزویت که نشری کتابه برسی و ما هم لذت ببریم خیلی ممنونم اگر یه روزی کتابم شاب کنم سعی میکنم به چند از دوستای ویبلاگی با امضای خودم کتابو تقدیم کنم و قطعا خیلی لطف میکنی که این کارو میکنی و ما هم با کمال افتخار از این هدیه ارزشمند رو قبول میکنم من خودم افتخار میکنم که این حدیه ازت داشته باشم پستی از کسی خوندی که کاملا به نظرت عالی باشه ما کلن ویبلاگی عالی نداریم به نظر من هر ویبلاگی برای خودش عالی ارزشمنده ولی منظورم پستی که به نظر تو عالی بوده باشه یعنی نظر شخصی رو بپرسم. نه عالی بودن اون پست یعنی به حسب نظر تو نه خود اون پست که هم‌سطه با پست ها ولی نظر خود رو میخوام بدونم این که اگر بدونی این پست رو بهمون به بگو که چه پستی بوده بدونیم که اسم نویسنده‌ش رو بگی و یا اسم وبلاگش رو بگی کلاً برامو تعریف کن تو چه موضوعی بوده این مطلب که تو خیلی دوست داشتی آره خوندم ولی الان خیلی حضور ذهن ندارم فکر کنم یکی از عالی ترینا مال یکی از دوستم بود که دنیای موازیشو توصیف کرده و جزئیات خیلی خوبی داشت کلا دنیای خیلی خوبی بود گفتم تو دلم گفتم کاش من اون رو تجربه کنم من یکم حافظم قویه ممانع اکثر پستی که میخونم و یادم میمونه برای همین نمیتونم بگم کدوم از نظر خوب بودن یادم اکثرشو یادم مخاطبانت رو در کد چطور ارزیابی میکنین مخاطبای وبلاگم من همیشه به مخاطبم افتخار کردم خدارش من مخاطبای خیلی خوبی دارم. همیشه به لزوق داشتن، نظرهای خوبی دادند خیلی وقتا دلداریم دادن، کمکم کرد تو زمینه‌ای درس که خیلی کمکم کردن. کلاً خیلی خیلی زیادی ازشون یاد گرفتم. خیلی یار آورم بودم بودن. می‌تونی رو در مورد من وبلاگم بگی؟ یعنی نقدش کنی یا توصیفش کنی خوشحال میشم بشنوم من ولی با اومدم وبلاگر وقتی گوزینای کانال وبلاگ رو گفتم وای چه وبلاگر نویسه خفنیه این اصلا نمیشه باش حرف زد الان تعمیل نمیگیره وبلاگ منو نمیخونه که بعدش که وبلاگ قبلی تام خوندم دیدم چقدر فرق میکنه قلمت با قلم این وبلاگت واقعا قلم جادوی داری میتونی لحنتو کنترل کنی چیزی که من نمیتونم باز جا خیلی سمیمی می نویسی، بعضی خیلی خوش، جدی، کلن جالبه برام، خیلی جالبه که میتونی کنترلش کنی به که هم دوست دارم، چالش های خیلی جالبی میذاری که من اصلا به ذهنم نمیرسه کلن خوبه، فضاش دوست دارم، پوست های طولانی هم می نویسی که یکم حوصله ای ما رو بیشتر می‌کنه. خبه در کل خیلی دوست دارم که وبلاگ تو بخونم کلا ستارت روش هم میشه جز هم ویبلاک هایی هست که میام سراره نمیستی این نظر لطفت خیلی معمنونم فکر کردم میخوایی بگی نمشتهای بلندت حسلم رو سر میبره ولی <تصفح> <تصفح> نه جدی حسلم سر نمیره خوبه ولی نگفتی این لطف داشتی من،, من فکر می‌کنم که وبلاگ باید با توییت فرق کنه برای همین راحت بلند گرچه الان این ذره رایتش میکنم صوتش میکنم ولی به نظر من اوکی که آدم بلند بنیمیسه وگه یعنی کوتاه این که میشه تویت، آدم میتونست بره توییتر تویت کنم نظر خاصه راجع راجبه من نداری که گرچه خیلی لحظ داشتی به وبلاگ من ولی منظورم این که کم بیشتر تعریف کن تا حالا قربانی خوشونت که کامنته خصوصی شدی هر نوعیش مثلا میان وبلاگی تو مسخره کنن یا کنکور دادن تو مسخره کنن یا این جور چیزا کلا ما وبلاگ نویسی داریم که توی ظاهر مثلا خوب دیده میشه ولی پشت سرت حالا رضیاتت کرده باشه اصلا داریم یه چیز کلی بگو خیلی جزئی توی مصاحبه دیگه هم صحبتش کردیم دوست دارم نشون بدم که واقعا هست یا نیست به هم بگو ببینم واقعا هست آره، کنکور دادنامو که خیلی مسخره میکنن بعد شده که کامنت خصوصی برای یه وبلاگ دادم، جواب بد گرفتم. یا یه سری بلاگر بودن که دوستاشام باشون دوست بشم، بعد که خوب و مؤدب و صمیمی بودن، بعد تو فضای کامنت خصوصی که رد و بدل کردیم، وای چقدر افتضاح. پس این عجیب غریبا هستن. خیلی بهشون نمی‌پرسازم که اولا گفتگومون زرد و اینا نشه، بعدم اینا بدونن که حتی انقدر ارزش ندارن که حتی راجبشون حرف بزنیم چه برسه این به اینکه بخوایم به کامنت‌هاشون توجه بکنیم و بهتری که این کارو نکنن ولی بدونن که حتی ارزش حرف زدن راجبشون رو هم ندارن و باید خودشون اصلاح کنن حالا یکم هم تو از ویدیو لاگ من تعریف کن چاش تعریف می‌کنم خیلی خوبه و خودم خیلی دونبالش کنم. چون کلم من به روزان نویسی احترام خاصی قائلم. حتی یکی از به محبوبم محبوب یه خانومیه به نام سارا که روزان نویسی هاش حرف نداره من خیلی دوستش دارم روزان نویسی و مثلا جمله بندی یه طوریه که آدم و خندوان یه جور بانمکی می نویسه خیلی کوتاه و می زنه به هدف اینو خیلی دوست دارم ولی خب Uh, به تو خیلی خوبه بعضی از مطالبت خیلی درجه یک <تصف> <تصف> <تصف> خیلی ممنون از لطفت ولی خب اینجا من رئیسم ها. من باز سوال کنم فکر میکنم که حالتی شوخی کردم خیلی شوخی بیمزهی هم بود در حدی خودم نخندیدم هر هر هر ولی آ... در مورد من خیلی لطف داری و خیلی ممنونم به نظرت من با خاطبانم خوب برخورد میکنم یا نه آره خیلی خوب برخورد میکنی یه سریع از نظراتو اگه برای من بذارن نمیتونم به تو جواب بدم آره درسته ببین با تقریبا با حرفت موافقم چون که به نظر من احترام به مخاطب خیلی مهمه و آدم باید در هر صورت اینو نگه داره شاید اون روز استثنان حالا آدم حالش خوب نیست یا ممکنه از مطلب ناراحت شده باشه در هر صورت احترام مخاطب خیلی مهمه و خیلی واجب اون من همیشه سعی کنم که این, این رایت بکنم و زیاد به معروف حالت اگرسیو نباشم و همیشه احترام رو نگه دارم و خب شاید این باعث به وجود اومدن این حسم شده باشه مثلا به نظر من باید با خون سردی جواب داد یکیش این, این دیدگاهه یکیش هم اینه که بعضی وقتا بعضی ها عمدن یک طوری کامنت میذارن که آدم را عصبانی کنن و حالش بد کنن ولی خب من اصلا عصبانی نمیشم چون که حرفی که اساسا حقیقت نداره چرا باید من براش انرژی بذارم عصبانی بشم برای همین این باعث میشه که کلم برخوردم بهتر دیده بشه چون عصبانی نمیشم و چون میدونم حرف حرفی که حقیقت داره آدم رو عصبانی میکن اگر مثلا من دزد باشم یکی کسی به من بگه دزد من عصبانی میشم چون میگم چرا من گفته د حتما یه ذره حقیقت داره ولی وقتی که من حسابم پاک باشه طرف به با من بگه د من اصلا عصبانی نمیشم چون وقتی که نیستم نبد عصبانی بشم از این حرف. و صد البته نظر لطفتم هست بعد من بیشتر دوست دارم وقت بذارم و کلا سطح کیفیتی قضیه رو بالا ببرم تا روز به روز مطالب بهتری پست کنم که مطالبی که واقعا به درد مخاطبین و عزیزان بخوره اگر موافق باشی یک استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم شنوندگان عزیز ا ما استرات کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم بگم میپری تو حرفم چشام همش رو تو زوم شبایی که عکسات رو بروم امشبم مثل شبای دیگه یه خواب آرام تار زو جای تو روزایی که کوچه بارونی چه حال دوستش بدونی که تو همین حوالیه چه خالیه حالیه جای تو روزایی که کوچه بارونیه چه که دوستش بدونی که تو همین حوالیه چه حالیه, حالیه سلام عزیز برگشتیم امیدوارم که از موسیقی پخش شده لذت برده باشید با نلی عزیز داریم گفتگو میکنیم و تقریبا به اواسط این گفتگو هم رسیدیم یه سوالی ازت دارم اونم فراموش کردم ازت بپرسم اونم اینی که گفتی که من برای او... یعنی تو برای اولین بار که به من سر زدی منوها و دکمه هاش چه میدونم دیدی و گفتی که واا این اصلا جواب نمیده این خیلی سطح بالاست و اینا میخوام بپرسم ببینم چرا این فکر رو کردی و اصلا چرا بعد وقتی که به بدلگی رو میبینیم که حالا پستاش خوبه یا مطالبش خیلی خوبه یا قالبش حالا خیلی حرفی و خوبه بعد این تفکر رو به ذهن الغاب بکنی که این نویسندش دیگه قرار نیست نظر درست جواب بده یا محل بذاره و این صحبت چرا اصلاً بحث تفکری تو این ذهن شکل بگیره؟ اتفاقاً به نظر من وقتی کسی زیاد روی وبش وقت میذاره یعنی این که خب وبشو دوست داره و خب با و هم مخاطبانش رو هم دوست داره و قطعا و قطعا بیشتر برای مخاطبش و وبلاگ و دنیای یه وبلاگ نویسسی که توش هست وقت میذاره. فکر می‌کنی علت این تفکر چی می‌تونه باشه نظر چی؟ نمیدانم شاید به خاطر پرخورده ای باشه که دیدم معمولا وبلاگهایی که حرف ترن یا پر طرفار ترن بده که دنبال نمیکردن یا جواب نمی دادن. مثلا من خودم معمولاً کسایی که برام کامنت میذارم میرم وبلاگش رو می‌خونم تا با روحیشون آشتنا باشم بفهمم. مخاطبام چه رویی دارن سلیقه‌شون زندگیشون ولی خب معمولا برای های پر مخاطب که کامنت می‌ذارم این چیزو نمی‌بینم نمی که بیان دنبال اینکه مخاطبشونو بشناسن یا وبلاگ مخاطبشونو بخونن برای همین همجنسی نسی آدم القا میشه که براشون مهم نیستی یا به و خب آره و متاسفانه اصلا از سر وقت نکردن نیست به نظر من کاملا از سر غروره عارفه کنم واقعا براشون مهم نیستیم فقط مهم اینه که کامنت بذاریم تا دل کامنتاشون بره بالا محبوب‌تر بشن واقعا براشون مهم نیستی. چون وقتی کسی که وبلاگ باز میکنه این که من وقت دارم یعنی من وقت دارم که حداقل روزی یه ساعت رو این چیزی که باز کردم وقت بذارم آدم نمیتونه یه کاری رو شروع کنه بعد ولش کنه یه مغازه‌ای رو باز کنه بعد ولش کنه بگه وقت ندارم مغازه‌م رو مدیریت کنم کاملا از حال غروره متاسفانه و خب برای منم خیلی سوال بزرگیه که واقعا چرا آره خیلی دوست داشتم با این فکرت مخالف باشم ولی این موافقم و متأسفانه درسته حتی اون کسایی هم که ایراد به این میگیرن که چرا مثلا بعضیا چرا مثلا فلان وبلاگ رو مثلا مردم میخونن اینطوریه و فکر می‌کنم در درد درد وبلاگ نیست در درد حسادته متأسفانه به نظرت اصلا رقابت بین بلاگرها درسته یا نه به اگه رقابت سر تولید محتوای بهتر باشه خیلی چیز خوب و درستیه ولی اگه رقابت به سر تعداد کامنت و مخاطب باشه نه اصلا درست نیست نتیجهش میشه چیزی که الان هست یه سری وبلاگای زرد میان رو نمیگم همه این ویبلوگ های پرمو خاطب نه ولی زیاد هم هستن از این مورد بعد کیفیت وبلاگ نیستی روز به روز پایین تر کلن بیشتر سمت حاشیه میرن آره درسته البته بازم میگم به لحاظ محتوا هر کسی آزاده هرچی دلش میخواد بنویسه و نمیشه گفت الان کیفیتش بالا میره یا پایین میاد ولی منظور کیفیت اجتماع رو پایین میاره اینطوری بهتر میشه گفت چون محتوا رو خب من نوعی کسی نیستم که روش نظر بدم بگم پایینه یا بالاست و هر کسی آزاده هر کاری درش میخواد بکنه ولی به لحاظ اجتماع وقتی داریم نگاه کنیم چون داریم میگیم بلگستان وقتی که این به لحاظ اجتماعی آدم نگاه میکنه این خب کیفیتش پایین میاد بعدم متأسفانه مخاطبا تازیکی و انگار از این نوع و با بیشتر خوششون میاد و بیشتر دنبالش میکنم و من گاهی فکر میکنم با این وضعیت بهتره که شروع بکنیم این دنیایی که درست کردیم و به صورت اجتماع در آوردیمش رو از هم بپاشونیم هر کسی هر بلاگی برای خودش یه بلاگ باشه و کلا بحث اجتماعیشو از بین ببریم و کلن هز بشه منظور اینه که صرف مثلا یکی بنویسه بعد بقیه بخوننش حالا نظر بده و مخاطبای خودش فقط در ارتباط باشه و دیگه بس اجتماع قضیه از بین بره کلن دیگه نخون بخونمه دیگه وجود نداشته باشه دوستی دیگه وجود نداشته باشه فقط حالا ممکنه من برم کسی رو بخونم که در خودم هم مینویسم برم کسی رو بخونم که اونم مینویسه ولی خب دیگه اجتماعی وجود نداره فقط هر هر کسی خودشه مثل دنیای خارج از بیان که به این شکل بلاگیران هم دیگر رو ممکنه بخونن ولی دیگه با هم ارتباط اجتماعی به اون قدرت ندارن بگنید که دیگه با هم خیلی دوست باشن ولی وقتی ما اجتماع تشکیل دادیم و قراره هم دیگر رو به صورت مسالمت ها با هم زندگی کنیم و حمایت کنیم این با این نمیخوره به نظر من. و جدا بشه بهتره الان مثلا مثال میزنم خیلی بده که صرفا چون قبلا گفتم چون من نوعی مثلا با تو مشکل دارم هر کسی به تو کامنت بده و اون هم من مشکل داشته باشم یعنی دخالت بکنم توی این که اون آدم چی کار بکنه اگر من مشکل دارم با تو ایراد از من ایراد از تو بین ما دو است ما باید یا مشکلمون رو حل کنیم یا باید سرمون تو کار خودمون باشه ولی تعمیم دادنش به همه آدما به نظر من درست نیست اینکه چون من از تو بدم میاد پس همه بعدشون بیاد و تو هم بد حس بشی تریگون از دست بره خیلی آنه عقلانی نه منطقی نه, نه انسانی هیچی نیست و دیکتاتوری هم یعنی همین وقتی که هیچ کسی نتونه حرف بزنه چون حرف من باید باشه فقط نمیشه که همه چی به دستور من باشه هر که من بخوام باشه ولی خب متسن مخاطبا همینو سر می نهند و وقتی که من روی دستور میدم که فلانی میام اش نمیام عملا بگم این کارا نکنید ولی وقتی که مخاطب می می‌بینه که اگر بره فلان جا کامنت بده این اتفاقات میفته و خب این نمیره بده نتیجاش این میشه و متاسفانه سرمینه هم و شرایط خیلی عجیبی به وجود میاد من اول مخالف قضیه بودم که باند به معنی واقعیش وجود داره ولی خب الان که دقیقتر فکر میکنم میبینم که این تو اجتماع ممکنه به وجود بیاد و تو همه رشته ها کلن ما ایرانی هستن علاقه داریم به این قضیه هر جو وارد می باند درست میکنه و این ضربه به اجتماع میزنه و فرصت, فرصت برابر از بین می‌بره. بعد در نهایت اجتماع تبدیل میشه به یه اجتماعی که با کلی بلاگر که همه با هم مشکل دارن، حالا استثنا چند نفر با هم دوستن ولی عموما همه انگار تحمل همدیگه رو ندارن تحمل همدیگه براشون سخته و مجبورن دارن تحمل میکن. در صورتی که ما نمیدونیم که هر وبلاگی که بره در اسب به ضررم ماست نه به منفعت ما. خب فکر نمیکنین اینجوری ماهیت اصلی وبلاگ از بین میره؟ نه ببین ماهیت اصلیش هیچ ارتباطی به اجتماعی بودنش نداره. بلا یه ما اومدیم و اجتماعیش کردیم یعنی مثل این که، سایت چیه؟ سایت هر سایتی خودش یه سایته خب سایت خودش تو ماهیت خودش سایته وقتی که ما می اجتماعیش می کنیم دیگه سایت ها دیگه اون تعریف اجتماعیشون رو دیگه سایت به نهایت خودش یه سایته ولی ما جمعش می کنیم و مثلا سایتستان رو درست می کنیم مجموع مثلا 50 تا 100 تا سایت که به هم متصلن به لحاظش اجتماعی اجتماعی همینطور بلاک بلاک صفه است و ما اومدیم اجتماعش کردیم یعنی ماهیت اصلیش اجتماعی بودنش نیست ماهیت اصلیش یه چیز دیگه است و ما اجتماعیش کردیم اگر نه هر وی اصلا حق نداره به کسی دیگه بگه که تو چیکار کن چیکار نکن مرس تعیین کنه چرا بگه چرا به این نظر میدی چرا به اون نظر نمیدی همین اجتماع بانده رو به وجود آورده دیگه چون با هم داریم تعامل میکنیم و این تعامله باعث میشه مشکلات به وجود بیاده مشکلات باعث به وجود مدنه باندا میشه خیلی از بداگیر خارج خارج از محیط بیان یا حالا هر جا هستن که دارن برای خودشون کاملا جدا تولید محتوی میکنن توی شبکه اجتماعی پخش میکنن دوستای خودشون رو پیدا میکنن و هم خودشون هم دارن مثل مثلا هولازون مثل سبکتر مثل چه میدونم یک پزشک مثل خیلی ها، خیلی هاشون هستن که دیگه این... البته دیگه یک پزشک عوش عوش شده مجله دیگه اون ماهیت قبلشو نداره ولی هستن زیاد هستن که اینطوری فعالیت میکنن یا تو قدیمیتر ها مثلا نارنجی نردبون اینا مثلا خیلی خوب بودن و اینا تکیمی نوشتن و خب مخاطبای خودشون رو داشتن ولی خب اینا خودشون رو میان یه ساعت میبرن بالا و جدا میکنن و نمیان مطالبی رو منتشر کنن که توی شبکه اجتماعی وبلاگستان خریدار داشته باشه و میان پستایی رو تولید میکنن که برای همه عامه پسند باشه و برای همه قابل استفاده باشه نه صرفا تو محیط وبلاگ مثال میزنم مثلا وبلاگ سبوکت هم میاد راجب سفر مینویسه برای این مثال ولی خب عامه مردم اینو میپسندن یکی از پستای صبوکتر آدم همرسانی کنه شبکه‌های اجتماعی ویو خیلی بالایی میخوره چون عام پسنده ولی ما همین داخل خود خیلی خیلی های پرطرفداری هم داریم که پستاشونو بذاریم شبکه‌های اجتماعی تره هم براش خرد نمی‌کنند نمیگم اون مطالب سطحشون پایینه نه اتفاقاً بازم میگم همه مطالب ارزش خودشون دارن ولی اون مطالبی که اون طرف تولید میشه به قانون معروف آمه پسندتره و برای همه قابل استفاده است بعد هرچی پوست ها توی این فضا سختتر بشن آمه پسندتر بشن به اون سم نزدیک بشن نظرات پایین میاد و کمتر میشن یعنی توی اجتماع این به ما حسابی ضعیفیم و خیلی از بلاگیرهای مددعی عامل این فضای مسمومت میگم دیگه آدم بخواد باید خودش یه لیول ببره بالا و پست آمه پسند و این قضیه ولی وقتی اگه تو اجتماع است باید اجتماعی هم رایت بکنه و قوانین و قواعد این جامعه رو را رایت بکنه من مثلا برای مثال توی ویرگول عضوم فعالیت میکنم مطلب میذارم و خیلی مطالب بیشتر دیده شده و همرسانی شده تو توییتر گذاشتم ریتوییت شده و دیده شده یعنی اون ماهیتش اونجا جداست است و من اون طرف دارم فعالیت میکنم ولی این طرف مثلا توی سرویس های بیان و بلالفا اونجور این اینا انگار خاک مرده روش پاشیدن اصلا پویایی نداره و علتش همین هاشیه هاست همین اجتماعی که ما درست کرده بودیم برای بهتر شدنش برای معرفی بیشترش برای قوی تر شدنش و داریم میبینیم که چطور همین اجتماع بندیه داره براتش به غ مخصوصا بین کسایی که تو بیان و بلاک واصلا یه سری تشن هست که معمولا وبلاگ های همدیگر سر نمیزنن یا کمتر دقیقا دیگه جپ بندی شده و این هم تقصیر الریز شیرازیه اینجا هم باید یه دونه نمره منفی بدیم به خاطر اینکه اولین قدم و خود علیرضا شیرازی گذاشت اونم با این کار که کللا بیانی ها روی بللااک نظر بدن آب آدرس خودشون نظر بدن و خب کللا انگار، بیانی اجتماعه ارزن به خدمتت که بلاکسکایی اجتماعه میهن بلاگی اجتماعه در صورتی که کل این ها باید اجتماعه به باشن و نه باید تپه تپه باشن همین قسم قبیل قبیله کردنش باعث همین آفت ها میشه یعنی دامن میزنه بعد تو نلی نسبتا دیر شروع کردی ولی من خیلی قدیم شروع کردم من رشد کردن این فضا رو دیدم یه زمانی آمانی وبلاگی پست میزد و یکی در تکمیل اون پستی پست میزد و اون وبلاگو منشن میکرد لینک میکرد و یک وبلاگ دیگه ای در نقد این دوتا پست پست میزد یا اونم نظرشون میگوف بعد همدیگر اینا معرفی میکردن به مخاطب می کردن, می هم رسانی میکردن حمایت میکردن پست همدیگر رو انتخاب میکردن تشری میکردن مخاطب وبم زیاد بود اون زمان اکثلا قشر تحصیل کرده بودن دانشجو بودن محسل بودن یا کارمندی بودن که حالا اینترنت داشتن و دنبال محتوا بودن مصلب بخونن دنبال میکردن و یادم کلی نظر داشتیم از کسایی که خودشون وبلاگ نداشتن ولی نظرهایی خیلی خوبی می مینوشتن و کلن این ها خیلی از همدیگه حمایت میکردن مثلا اه اه می اومدن همدیگر رو پست همدیگه رو معرفی می‌کردن مثلا یه پستی می‌بینی نوشت ولی خب زیرش یه دونه می نوشت که مثلا فلانی هم فلان پستو زده که خیلی خوبه بخونید دو اینا اینطوری بود اون زمان چقدر کار خوبیه کاش بازم داشته باشیم آره آره درسته ولی خب الان نداریم الان کلا محتوا و محتوای فارسی و قسن همرسانی کردن و اینجور چیزا کلا مرده و جاشو داده به یه سری خاله اونباجی بازی یه سری آدمایی که فکر میکنن مثلا راه درستش اینه کلن اون زمان نظر, نظر وقتی گذاشته می شد که آدم حرفی داشت واقعا ولی الان یه چیزی به وجود اومده به نام توادل نظر اصلا عجیبه بعد اون زمان اینا مثلا می اومدم با همدیگه نظرشون رو روحم میریختن تبادل اطلاعات میکردن تو نظرات میشد رو راحت و با نقد کنی مطالب رو نقد کنی اونا پاسخ با مهربونی و احترام می دادن یا اگر نقد وارد بود قبولش میکردن خودشون اصلاب میکردن، نوشتارشون رو میتونستی تکمیل کنی قشن گوش می دادن بحث میکردن. نمیگم همشون اینطوری بودن بودن آدمایی که راجع دم قابل نقدم مقاومت میکردن بی احترامی میکردن ولی اون زمان اونا توی یه مین... مینور نه بذات فارسی شو بگن اونا یه زمانی توی چیز بودن توی حد اقلی بودن خیلی کم بودن کسایی که عاشق نقدن عاشق این که بقیه چه میدونم بهشون نظر بدن توی قسمت اعظم توی ماجوریتی بودن و کلا فضا فضای بحث و گفتگو بود گفتگو با هم دیگه اصلا گفتگو جریان داشت ولی امروز حتی جرات نداره آدم بگه پست خوبه ولی صلیقه من نیست من دوست ندارم. راحت به احترامی آدم می میشه بهش. آدم نمیتونه بگه پست تو من دوست نداشتم. چون من من خودم نمونش چندین بار رفتم و با خیلی پر مخاطر. تعداد فعالای بالا همم هم تو کامنتان نوشته بودن عالی بود در صورتی که من اصلاً مطلب و متن رو دوست نداشتم و جرعت هم نکردم که بگم آقا من این مطلب رو دوست دارم یا بعضاً این به کنار بعد این روزا کلن معرفی کردن پست به زور بقیه میاد میگن چرا اینو معروف میکنی چرا اینو گنده میکنی آخه همین دیگه ای ای اینها ها هاشیه های قضیه است این ها قضیه است چرا من نتونم مطلب خوب کسی دیگر رو به دوستان پیشنهاد بدم جورت نداشته باشم چون ممکنه چهار تا باند دیگه منو وایکوت بکنن منم اگر شروع کنم قربانی میشم چون در نهایت قاعده هستش و چون فرهنگش نیست نمیشه این کارو توی این محیط کرد این منم اگه حتی شروع کنم مطلب معرفی کردن به مشکل میخورم بعدم این روزا و با محتوی به اون صورت تولید نمیکنم که آدم بتونه روشون بحث کنه لینک کنه صحبت بکنه یا صرفاً بیرون رفتن نهار خوردن کسی رو من خب چطوری تح... چه تحلیلش کنم مثلا میگم چرا رفتی نهار خوردی یا مثلا اگر فلان رستوران میرفتی بهتر بود خب اینو خب تو نظرات میتونم بگم نیازی نیست که یه پست کامل دیگه من بزنم در راستای اینکه تحلیل کنم که اون آدم رفته نهار خورده چی بوده قضیهش میدونی من خیلی آدم رو رکیم از چیزی خوشم نیاد معمولا میگم برای همین وقتی مینم یه پست بدام نمی‌شینه تا تج نمی‌خونم چون اگه بخوام تا آخر بخونم مجب... خودم رو مجبور میکنم که برم نظره بدم رو بهش بگم اولاد محترمانه ولی خب بقاله تو کسی گوش نمیده و به ضرر خودم میشه پس تا سعی میکنم که نخونمش آره دیگه هم اگر این اینکه وسطش بیخیال بشه بریم بیرون آره من همونطور که ارز کردم قشن یادم اون زمان هرکیس که یه مثلوی به پایین پاور مینوشت پاور رقی دونخته مثلا می گفتش که فلانی هم یه مطلبی در رابطه با این نوشته اونم بخونید مثلا خوبه امید. یا مثلا که کسی یه مطلبی می نوشت بعد پایینش می نوشت اینم به این موضوعی مطلبی نوشته اینم بخونید اینطوری هم دیگر رو معرفی می کردم ولی امروز همچین چیزی نیست من یادم بعد که تو بلاک سکای بودم یه نفری پستی نوشته بود بعد من در راسته تکمیل اون مطلب یه دونه مطلب نوشتم این حدودا حددودا دو سال پیشه دو سال پیش این اتفاق افتاد یه مطلبی نوشتم بعد رفتم بهش گفتم که من در راستای مطلب شما یه دونه مطلب نوشتم بعد اون اومد خون و فقط گفت مرسی خیلی خوب بود گفتم همین یعنی حرف من ارزش نداره که تو بدی اینو بزنی زیر پستت چون بالاخر من راجب تو مطلب نوشتم دیگه تو این برای توه و تو باید بری زیر پستت نظر منو هم بذاری این انگار به نظر دادم باید این به پستت بره متصل بشه لینک بشه که مثلا راجع به این مطلب فلانی هم چیزی نمشته میتونید نظر اونم بخونید انگار نه انگار نمیدونم کلا خوشمون نمیاد دیگر. اصلا دیگه اصلا میگه بعدمون میاد ولی تو ظاهر نشون میدیم که انگار همدیگه را خوشمون میاد کلا یعنی کامل محتوا قربانی اینطور رفتاره شده. وای یه بار من یه پستی رو معرفی کردم توی وبلاگم کلی کامنت اومد برای من که تو برای چی اون رو تبلیغ میکنی؟ پول گرفتی چرا اون تو رو تبلیغ نمیکنه؟ وای پستش خیلی سطح پایین بود تو چرا اومدی رو توی وبلاگ تبلیغ کردی خلاصه اینقدر چیزایی منفی گفتن که ادامهش ندادم همون دیگه وقتی که آدم لینک حم میکنه یا منشنم میکنه میگن پول گرفته حتما یا تبلیغ داره میکنه یا همون جریانه باند و بای اینا پیش میاد و کلن این قضیه انگار خیلی سخته بدم همه دوست از همه انتقاد کنن ولی ازشون انتقاد نشه یعنی من دوست همه رو بیام انتقاد بکنم هرچی دارم بخواد بگم ولی بقیه از من کسی انتقاد نکنه من تعمال اونا رو ندارم خب این نه منطقیه نه درست آدمت که دوست داره نقد کنه باید انتظار نقد شدنم داشته باشه ولی خب الان اون فرهنگش نیست ای این کارا مثل زمان قدیم اتفاق نمیفته و امیدوارم یکاش به خودشون بیان و در نهایت دوباره این کارا رو شروع بکنن و انجام دادن و خدا شاهد اگر اینها این حرفای من از سر حسادت باشه یا اینکه بخوام بگم چرا منو با من این کارو نمیکنید چرا منو معرفی نمیکنید اینا کلا داریم کل قضیه رو میشکافیم و توضیح میدیم اصلا همدیگه رو بکنید اصلا کلا با من کاری نداشته باشید با همدیگر این کارو بکنید چون ببینید یک وبلاگی که پر مخاطبه وقتی که میاد پستی وبلاگ کم مخاطب رو میذاره درست داره به من ممسلب اونو پیشنهاد میده و من خب اون وبلاگ کم مخاطب به چشم نمیاد نمی بینمش ولی خب وقتی که مسلب اونو میاره میذاره توی وبلاگی که پر مخاطبه خ خب درست من اون مطلب رو به منم آگاهی رسانی کرده و خب از این جهت خیلی همرسانی مطلب مهمه این که فقط خودمون بخونیم که پشنگ نیست امیدوارم درست بشه آره به نظرم بلاک فاک بودیم یه سر سمیمیت ها بیشتر بود همین که مجبور میشوند روزی چند بار به بلاک های محبوب سر بزنیم ببینیم بروز شدن یا نه خیلی خوب بوده. آره من, من میگم هر کاری میکنن بکنن ولی کلان فرهنگ این دنیا رو عوض نکنم و فرهنگ جدید بعد تزریق نکنم به این داستان من وقتی این ویبلاک که یه ذر قدیمی تران رو میخونم بعد مقایستش رو میکنم با اونه که تو گذشته میخوندم تو ذهنم یه نتیجه گیری میکنم حس میکنم همه اونه که خوب بودن خوب نوشتن نقد قبول میکردن رفتن اکثران هم ویبلاک رو بستن رو رفتن بعد اون کسایی که تو اقلیت بودن موندن، ادامه دادن و متاسفانه نسل جائیدم به خلاصه خودشون در و این شده که به اینجا رسیدن. آره. باهات موافقم. شبایی که امسا رو برومه امشبم مثل شبای دیگه یه خواب راحتار دومه خالیه. جای تا یه تو روزایی که کچه بارونیه چه حالیه اون که دوستش داری بدونی که تو همین حوالیه خالیه, خالیه جای تو دایی که کوچه بارونیه چه حالیه این که دوستش داری بدونی که تو همین حوالیه من خودم کسانی رو دیدم که وقتی لغو دنبالشون کردم چون فکر می کردم پستشون سلیقه من اول فکر میکردم پست‌هاشون سلیقه منه بعد که مدت خوندمشون دیدم نه سلیقه من نیستم و وقتی لغو دنبالشون کردم به محض اینکه به محض لغو دنبال کردنشون سر کله‌شون پیدا می‌شد و یه حرفی حالا تو پاکت میزدن یا حالا یه تیکه می‌انداختن یعنی من اه دقیق تعجب کردم که طرف دائم داره این لیستشو بروز میکنه ببینه کی انفالوش کرده و وضعیت خیلی خرابه در صورتی که من میرفتم میدیدم مثلا تو قسمت دنبال شده ها اینا منو دنبال کردم ولی دریقه از که یه نظر بدن مثلا یه وبلاگی هست که خیلی وقتا مثلا داره منو دنبال میکنه ولی تا حالا من حتی یه نظرم ازش نگرفتم حالا که لغو دنبالش کردم مثلا برای توهین فرش که گیر بدن چرا لغو دنبال کردیم اومدن حرف بزنن وای چقدر بد منم بودم به کسایی که لغو دنبالشون کردم ولی خدا رشد اینجوری نشد که بیان فرش هم بدن فقط دیگه کامنت نذاشتن برم یا مثلا یه بار یکی رو به صورت موقت لغو دنبالش کردم که ببرم توی فید خصوصیم بخونممش که قشنگ یه بلاگش خوب بخونم. بعد به محض اینکه لغو دنبال کردم اومد و حرفای خیلی ناجوری زد. و منم گفتم اولا خیلی بده که انقدر زود قضاوت می‌کنی. من میخواستم یه تغییراتی بدم و دوباره می‌خواستم بخونمت. اینطوری فقط داشتم لیستا رو عوض بدل میکردم مجبور شدم لغو دنبالش کنم که هرو هر لیست حذف بشی از توی فید دیگه دنبالت کنم. اون بهتره. بله خب به محض این که من ایشونو لغو دنبال کردم اومد و به من گیر داد بعد چه دقیقی هم دارن؟ آره اومد حرف زد و این حرف یه مقداری چیز کرد و بعد من, بعد من از این حرکتش خیلی بدم اومد و کلا دیگه لغو دنبالش کردم و دیگه دنبالش نکردم چون که خیلی رفتارش زشت بود بعدم دیده شده مثلا یکی سر رو لغو دنبال کردم بعد رفتم قسمتی که سایه کیسا که منو دوومون کردن چون بعضی از عکس‌ها رو آدم زیاد می‌بینه براش شناس میشه تصادفاً دیدم که ای همون لحظه من لغو دنبال کردی یعنی آدم آدم چ... یعنی نشسته پشت قسمت دنبال کننده هاش داره ظلم می‌زنه ببینه اسمی که کم شد که همون لحظه بره لغو دنبال بکنه خیلی تعجب برانگیز بود برام مثلا گفتم چ... چ... چرا این آدم نشسته دائم بیشار ساعته داره ظلم میزنه کسی به محض اینکه که لیستش حذف شد سری لبا دنبال کنه واقعا نقع بیکاره چه دقیقی هم دارن آره بله، چه دقیقی هم دارن ولی خب با اون حرفت هم موافق هم کاملا درسته که یه سری عقلیت ها مونده بودن بعد اومدن این فرهم گره همواش دادن که تهش شده این نه من دو نفر رو که لارو دنبال کردم یکیشون اومد رسما بنفش داد یکیشون هم اومد تیکن داخت منم از این حرکتشون خیلی بدم اومد خیلی ناراحت شدم ولی خب گفتم یکیشون لغو دنبال نکرده بودم داشتم مرتب میکردم خوبا رو ببرم روی فید شخصی خودم اونجا بهتر بخونمشون چون که بیان, بیان اینطوریه که وقتی یک پست جدید میزنه مثلا اگه پست قبلیش هم نخونده باشی رد میشه فقط آخرین پستو نشون میده. و یه تو فید اختصاصی اگر یه بلاگر تو یه ساعت 20 تا پستم هم بزنه همه اون 20 تا پستو نشون میده. و من میخواستم می‌خواستم رو ببرم تو اونجا که همه پستا رو بخونم، پست از دست ندم. و خب اومد تیکن داد، خب من خیلی ناراحت شدم و از همون فیدم هم حذفش کردم چون خیلی بهم برخورد. بعد بعد میدونی چرا اینو خیلی دقت میکنن به خاطر اینکه چون فکر میکنن به تعداد دنبال کننده است. یعنی چه دنبال کنده بیشتر باشه خوبه نه همین سر دنبال کردن و نکردن دقت کردم دیدم همه کسانی که نقو دنبالشون کردم همشون هر دهتا تا یه بار که حالا به من ده تا پسته یه نظر داده بودن ولی من فکر میکردم که اینا مثلا از پستم خوش... خوشش اومده نظر گذاشته ولی بعد دیدم نه حتی نظر هم متاسفانه تبادلی شده یعنی نظر بده نظر بدم هر ده تا نظری که دادی یکی من میدم دیدم وای خدا چی شد اصلا کجا رفتیم ما آره متاسفانه نظراتشون هم همینجوری شده اه... اگه من نظر کوتاه بذارم، نظر کوتاه میگیرم، بلند بذارم، بلند میگیرم، سکوت کنم، سکوت تعویل میگیرم. <تصفيق> خیلی بده اگه اینطوری باشه. برای همین اتفاق این ایده گاهی به سرم میزنه که کلند برم تو اون نو فاز از وبلاگ نمیسی که به قول معروف بشقابم از بشقاب بقعی جدا کنم، برم توی یه جای کاملا جدا بنویسم مثل همونی که میگم یه لول میبرم بالا. بعد مطالبا همه پسندی می نویسن و نشمیدن و این دیگه تو اجتماعه نباشم برنم بیرون جدا برای خودم بنویسم و یه سری مخاطبای جدیدی رو جذب کنم بعد این قضیه که کامنت کوتاه بدم کامنت کوتاه می گیدم بلند بدم بلند بگیدم می یعنی چی دیگه یعنی کسیم پست همیتی نداره برد فقط تبادل نظر می‌کنه. من اوائل برام مهم نبود چرا اینطوریه ؟ ولی بعد از مدتی که گرفتم زیر بین متوجه یه چیزهایی شدن که برای اولین بار اصلا توی این گفتگو میخوام ازشون رونمایی کنم که هم خودم حسابی تعجب کردم هم شما حسابی تعجب کنید و هم شنوهندگان عزیز حسابی تعجب کنم آره بعد شاید تیاله باشه من ماهای اول که شروع کردم وقتم به نسبت آزادتر بودش شروع, شروع هم بیشتر بود بعد اکثر وبلاگ ها رو می از قسمت وبلاگ تو ای شده نظر میذاشتم داشتم اکثرا این هیچ پستی بدون نظر نمیمون معمولا چوری که دستم میگه هر وبلاگی میرم یه نشونه ای از تو هستش بعد اون روزا بازدید وبلاگم روزی حداقل 60 70 نفر بود چون همه اونا میمدن وبلاگم دوباره رو پس میدادن نظر میدادن برام بعد یه مدت که دیگه کم کار شدم میخونم ولی کمتر می ز... کم کامنت میزنم براشون کامنت های خودم کم شد بازیده هایی اومد پایین یه چیز عجیبی همون دیگه سر نزنی سر نمیزنن آره داشتم میگفتم آدم بوده که من با یه روش هایی متوجه میشم این رو که نمیخوام بگم اون روش ها چیه ولی نشستم چک کردم از روی سیستم و متوجه شدم که یه آدمی اومده و مثلا من پوست رو در ساعت 11 و 45 دقیقه مثلا منتشر کردم و میدونم خوندن این پوست در سریع ترین حالت ممکن هفت دقیقه زمان می بره و می تو کامنت ها می بینم 11 و 47 دقیقه یکی اومده نوشته خیلی خوب بود لذت بردم واقع تو چطوری تو دو دقیقه متنی که حداقل برای آدمی که تندخونی میکنه این مطلب اه اه طول میکشه تا خونده بشه تو چطوری تو دو دقیقه همه اینو خوندی نظرم تایپ کردی تو دو دقیقه متوجه میشم که فقط سریون کلیک کرده اومده نظر رو رفته اصلا مثلا نخونده یا مثلا بعضی میان به کل مرز کلی نگاه میکنن. مرز رو نمیخونم مثلا از بالا محمد رو ور میداره میاد جلوتر مثلا کودک مریض مثلا سر قسمت لبو خب سایه داستان لبو از اون بالا شروع میکنه مثلاً یه اسمیه خب مثلاً ناصر خب ناصر رو اون بالا میخونه میاد پایین دختر مریض رو میخونه میاد پایین تر رو او میخونه میاد پایین تر فروشی رو میخونه میاد پایین تر پیرمرد پول دار پایین تر 300 میلیون پول بعد زیرش میزنه چه ناصر خوش شانسی می یعنی نه یا مثلاً میزنه بیچاره ناصر که بعد شد رفت در صورتی که اصلا داستان این نبود. کاملا نظر بی ربط به پست میذاره، اصلا معلومه نخونده. بعد منم تذکر میدم دوست عزیز وقتی که نخوندی چرا میایی نظر میدی؟ خب بعد برگشته به من توهین میکنه میگه که تو اگه آدم هایی که یه ذر شعور و سواد داشته باشن میدونن که این روزا علم تندخانی اومده آخه تندخانی من دارم میگم برای آدم تندخان 6 دقیقه برای کسی که کند میخونه دوازده دقیقه طول میکشه که این مطمو بخونه تو طوری تو دو دقیقه اینو تندخانی کردی؟ بعدم مگه کسی اسلاحه رو سرت گذاشته که میگه اینو بخون؟ مثلا میان فقط نظره رو میذارن که بگم داریم دنبالت میکنیم بیا نظر بده ما رو دنبال کن میگم بابا مگه کسی بالا سرت مگه اسلاحه گذاشته که تو مثلا سریع این رو بخونی سری نظر بدی رد بشیه بابا اگه قراره به منو تندخونی کنی اصلا چرا میخونیش مگه درس مگه چه میدونم کسی اسلاحه سرت گذاشته که باید این وظیفه رو انجام بدی. اگه با عشق نمیخونی اگه وقت روش نمیذاری اگه میخوای تندخونی کنی خب نخونی بهتره وقتت که ارزش داره وقت تو با خوندن من تلف نکن تازه فکر میکنی اگر به من بگی تندخونی کردی مثلا خیلی من قانه نمیشم تازه تو تا واقعا بیشتر به بر میخوره که تو وقت نداری چرا منو تندخونی میکنی نخون این وقت وقتو بذار کار بهتر انجام بده این وقتو بذار کتاب بخون این وقتو بذار درس بخون همین دیگه اگر قرار باشه منو تند خونی کنی دیگه الکی نظر اسپان میدی وقتی نظرت بی رفت به پست فقط داری نظر میدی که من باید بعدا نظر بدم نظر اسپان محسوب میشه بعد شنوندگان عزیز توجه کنیم که ما توجه کنید که ما داریم قسمت اجتماعی بودن و تمام داشتن وبلاگ ها رو بررسه میکنیم وگرنه و گرنه به صورت استاندارد برای نیست مهم نیست که چه کسی نظرش رو پاسخ میده یا نه یا مثلا پستش رو چطور میخونه اگر نظر پاسخ داده شده خب پاسخ گرفته و پاسخ نداده باشه مثلا من وقتی که میرم یکی رو نظرش رو میذارم یک پاسخ داده باشه که اوکی ولی اگه پاسخ نداده باشه میفهمم که خب اتمن یا وقت نداره یا چه میدونم سواد پاسخ رو نداشته یا حالا علت هرچی بوده نداده ولی در رابط وقتی که ما قضیه رو تعاملی میکنیم اجتماعی میکنیم دیگه این نقط ها کاملا به قضیه نیست. اینا آفت های این اجتماعه و خب باید یا حل بشه یا بلاخره یه فکر باید راجبش بشه یه لحظی که در برنامه هفت افتاده آره این دیگه مثل دریافت نظر مثل دریافت ایمیل میمونه نیازمنده اینه که یکی بهش پاسخ بده نیازمنده یه واکنشیه نیازمنده یه سری کاراه نظرم مثل, نیگم نیم، مثل ایمیله نظر یعنی اگر حرفی روی این پستداری بزن یه چیزی هم که خیلی جالبه برام اینه که بعضی خیلی علاقه دارن که کامنت اولی باشن، کامنت اولی یه پست باشن تا ستاره آن میشه. سعی میان که بکن اول اول اول. آره خب بر... در نهایت مخاطب داره این حرفای ما رو گوش میده. و خب ناراحتی وقتیه که بعد از انتشار این برنامه صوتی و وقتی که عده به این گفتگو گوش دادن شک نکن که این نقدای ما رو به حسادت ما ارتباط میدن و دقیقا خواستم بگم که باید بعد از انتشارش منتظر کامنته شناس و ناشناس دوستایی محترم باشیم البته همینجوری نیستم ولی مسلمم چیزایی بدی قراره بشنبیم من شخصم دلم به حال فضا میسوزه چون من اگر هرچی یاد گرفتم از روزایی یاد گرفتم که اینجا تو این فضا نوشتم و از وبلاگ نویس هایی یاد گرفتم که با هم دوست بودن با دشمنی، با تبادل کامنت، با لایکشی، و برقبازی برق روز به روز به قهقره تشریف می‌بریم. کسی پیشرفت نمی‌کنه. من ناراحت اینم که ممکنه الان ما رو عرض به خدمت تختعه بکنن و بگن که وای اینا سر حسادت دارن این حرفا رو میزنن این اونطوری اون طوریه سیاه نماییه ولی نه سیاه نمایی نیست واقعاً این یه واقعیت این دنیاست الان مثلا من با بلاگرایی که اون موقع بودن و بهم به یاد دادن در از این تجارب زندگی رو کسب کردم وارد تری سایت شدم این جو رو یاد گرفتم من نوعی بعد با دشمنی و تبادل کامنت و لایکشی و اینا به قهقله تشریف میبریم رشد نمی کنیم بعد هم با, با وجود این کار رو انجام میدیم میگیم که چرا وبلاگ داره میمیره آره متاسفانه بعد از انتشارش باید منتظر هر چیزی باشیم بعد من باز تأکید میکنم که اینا فقط نقداییه که به فضا وارده هر وبلاگی مدیرش هر طور شخصیت رفتاری میتونه داشته باشه آزاده ما برای این خورده نمیگیریم که تو چرا اینطوری هستی؟ ما داریم به این خردی میگیریم که چرا این فرهنگ داره لغو میشه چرا دارن اینو فرهنگو یاد میدن و بلاگر تازه وارد اینو یاد میگیرن اینم را نمیصاره که تازه وارد شدن اینو یاد میگیرن فکر میکنن کلا بازی وبلاگ اینجوریه تو بازی اینستاگرام باید فالو فالو بک کنی باید فالوورات جو 200000 تا مثلا گیمو بردی بازی وبلاگ هم مثلا اینجور کارا این کارا رو بکنی این کار این اتفاقات بیفته برنده ای اگر قضیه ما قضیه حسادت بود خب اصلا راه حل براش ارائه می می‌گفتیم آقا اینا رو دنبال نکنید، اینا رو بایکوت بکنید فلان نه آقا اینا رو بخونید براشون بیشتر نظر بذارید ولی خب اینایی که اینطور رفتارا می‌کنن هم سعی کنن دیگه خودشون اصلاح بکنن، به اجتماع کمک بکنن، یه مقداری فل... به فضا کمک بکنن. ما نمی‌گیم که اون حزو بشن. ما میگیم اتفاقا اونها هز بشن باز به ضرر ماست چون که به اجتماع داره ضربه وارد میشه اونها هز بشن باز جامعه کچیکتر میشه اتفاقا به نظر من اونا باید باشن و حالا که این امکاناتو دارن و حالا که این مخاطبو دارن باید در راستای کمک کردن به جامعه تلاش بکنن و باید کمک کنن که این کل اجتماع به سمت تعالی حرکت بکنه اگر نگه حسادت بود که ما راحت بی اگر حسادت بود که خب من هم میگفتم بیایید فقط منو بخوید من آدم خوبه منم بیاید فقط منو بخوید ولی من میگم اخلاق رو توی فاز مجازی یاد بدیم یاد بدیم که قاعده اصلی بازی این نیست یاد بدیم که ما وبلاگ بد و وبلاگ خوب نداریم یاد بدیم که اصلا وبلاگ شاخت نداره شاخ اصلا در شأن و منزلت وبلاگ نمیسی نیست استفاده از این از این کلمه اصلا در شهن و منزلت وبلاگ و وبلاگ نیمیسی و کلن قلم نیست و یاد بدیم که این سلیقه ماست که یکی یه مصدبی رو میخونه و یکی نمیخونه این سلیغه است و یاد بدیم که نظر همه محترمه باید انتقاد پذیر باشیم یاد بدیم که هر کسی میتونه دیدگاه خودش و دید خودش رو از مسائل داشته باشه کاملا درسته با همه حرفات معافظم یاد بدیم که همه چیز آمار نیست آمار خوب با صف کشی و لای بازی به دست نمیاد، آمار خوب با محتوای خوب و همرسانی کردنش به دست میاد. برای این همرسانی بلاگ نویسا باید با عشق و دوستی متحد باشن، مطالب همرسانی کنن و هم دیگه کمک کنن. مجوره ب... نیست که به منظوری نیست که به بهانه دوستی بیان پستاشونو به اسپارن بقیه براشون پخش کنن که باز اینجا انتفاه پیش میاد، باز اینجا به با قول معروف فضا به هم میخوره. ولی خب همه بشینم فکر کنن که مثلا سود فلانی سود من هم هست چون دارن برای ارتقاء کل شبکه کل مجموعه فعالیت میکنن با هم دیگه دوست باشم با هم دیگه یاد بدن خوندن یه کتاب خاص فخر نداره اگر کسی نخونده مسخرش نکن بیا بهش تشفیقش کن بخونه اونم علمش بالا بره اونم دانائیش بالا بره ترجم کنی این کار رو باید بکنیم مثلا وقتی که یک کتاب خوبی رو خوندی که کسی دیگه ای نخوندی نه یه بکب تو سرش بگو خاک تو سرت نخوندی قایم نکن مخاطب فهمیدن دور نکن انقدر خودخواهی ما رو به قهقرا میبره که اصلا داغون میکنه ما رو ریچارد ستالمن میگه که انسان ها باید یاد بگیرن از چیزی که دارن به بقیه هم بدن و با هم زندگی کنن و به بقیه کمک کنن. یه جا خونده بودم یا حدیث بود دقیق یادم نمیاد که میگفت ان تنها چیزی که با نشرش بیشتر میشه هرچی به بقیه یاد بدیم علم خودمون هم مسلماً بیشتر میشه. ولی به عنوان یه بلاگر فکر میکنم اگه قرار نباشه درست بشه، گزینه بهتر اینه که آدم پلان B رو اجرا بکنه و همون تپه تپه هر بلاگ خودشیه. تپه بشه گزینه بهتری و بکنه اجتماع از بین بره. اجتماعی وجود نداشته باشه. گاهی وقتا یه پست خاصی خیلی به سلیقه من نیست ولی من حمایت میکنم حمایت کردن دلگرمی دادن خیلی مهمه. ولی الان آمار بالا این دلگرمیه رو بی‌ارزش کرده. انگار یادمون رفته به خوندن پست نظرهامون حرفامون دلگرمی برای هم. چون گیر عدد افتادیم این عدد کنار نظر ازش دگری نمی گیریم چون گیر عددیم عدده فقط مهمه. اگر قضیه عدده بر کنار تعداد بر کنار همه همدیگه رو حمایت کنن ببینیم که گاهی یه بازدید اونقدر گرمه که سوحال اشقهالصد تا بازدید رو میده یه دونه بازدید. وقتی ما وقتی که میشمیمش پس بیا ارزشش کردیم چون میخوایم زیاد بشه کیفیت مهم نیست کمیت مهمه. وقتی که زور میزنیم برای حمایت نکردنه. یارزشش می‌کنیم. امیدوارم که درست بشه و این پلن اجرا نشه. خیلی متشکرم. منم خودم امیدوارم که درست بشه و همه چی عالی بشه. فقط کافیه که همدیگر دوست داشته باشیم، دوست باشیم و هم کمک کنیم و همدیگر حمایت کنیم و این اخلاق زشت و بدو بذاریم کنار و فکر نکنیم فقط خودمونیم. بابا یه ذره بیایم پایین. چه خبر جنگ که نیست. بابا خدا کی نیستین؟ هممون انسانیم، هممون یک اندازه و جایگاه مساوی داریم برابر داریم و قرار نیست که کسی بره بالا بایسته یکم بیانی پایین یکم هم دیگر را کمک کنیم عشق ببرزین و فضا رو مسموم نکنیم خیلی توی این موضوع صحبت کردیم آله دیگه فکر کنم مخاطب حوصلش تر بره. بهتر پس را عوض کنیم موافقی اگر موافقی فکر کنم یک استراحت کوتاهی بکنیم و باز برگردیم به ادامه. گفتم یعنی مخاطبان عزیزمون رو یه موسیقی دیگه مهمون کنیم بعد از اینکه شنیدن برگردیم اون چه شرط پلاغ بود گفتیم دیگه بقیه‌اش با بقیه آره دیگه ما آنچه شرط پلاغ بود و گفتیم به هر حال و امیدواریم که دیگه خودشون هر کاری دوست دارن بکنه خب شده من دیگون عزیز ما بعد از یه پاوز کوتاه برمیگردیم آره خیلی خوبه دوستان عزیز برگشتیم امیدوارم که هم موسیقی که پخ شد لذت کافی رو برده باشید دینی عزیز اهل فیلم و سریال و اینجور چیزا هستی؟ نه خیلی نگاه نمی کنم نگاه نمی کنم ولی اسماشون رو یادم نمی میکنم خوخ مرسی که گفتی با... کلن سوالم ترکید رفت رو هوا ولی خب یه فیلمی که اسمش یادت مونده باشه رو بهمون بگی خیلی ممنون میشم. بگی مثلاً چه فیلمی رو خیلی دوست داری؟ خیلی ممنون میشه هر تا یه دونه از یه کنکوری توقعی چه فیلمی دارین؟ آقا من کنکوری بودم فیلم ندیدم چیزی که پارسال دادم خیلی خوش آمد What Happened to Monday یا همون چه اتفاقی بر دوشنبه افتاد بود خیلی خوش آمد از و wow. what, what Happened to Monday uh, فیلمیه که من ندیدمش و سعی میکنم ببینمش دوستان عزیز What Happened to Monday. فیلمی که نلی عزیز معرفی کرد اگر دوست داشتید ببینیدش که این دوستش داشت مهمون عزیزمونی فیلمو دوست داشت و معرفی کرد نلی یعنی از چند تا سوال میخوام در مورد وبلاگ ازت بپرسم چون بهانه این گفتگو روز وبلاگستانه بعدش میرم سمت سوالای شخصی یعنی فکر میکنی که تا کی بنویسی و تا کی دنیای وبلاگات رو داشته باشه همونطور که خودت هم میدونیم من قصد داشتم که کلم و بللاگم ببندم بندام برم نمی ادامه بدم چون هم دیگه شروع شو و اولیار نداشتم به خاطر این فضا همین که حس کردم کم کم داره کامنت های منفیم زیاد میشه منفه میکنم بمون مونده خوبه رفتن چیزی رو حل نمیکنه. میدونه ما شیرینی یه چیزی رو چشیدیم که دلکنده کنددر ازش برمون خیلی سخته. تحتش یه جا باشه که ما خالی بشیم. و فکر میکنم بمون نرو برای همین نمیتونم تضمین کنم تا کی هستم ولی از درس تهدیدات که حالا حالا هستم سعی میکنم بمونم ایدعال خودم اینه که تا وقتی نفس میکشم بنویسم ولی بستگی داره که تا کی میتونم بدون قضاوت بنویسم تا کی این راحتی دارم تا کی از دست آشناها در امانم و خیلی چیزای دیگه آرایی که ما ما دیگه معتاد نوشتن شدیم. من وقتایی که نمی‌نویسم هم تو ذهنم هی جمله رو تکرار میکنم یه بارم عکسو برای یکی از مخاطبام فرستادم روزی که میرفتم سر آزمون از آزمون که برمی گشتم پستی که تو ذهنم بود رو دفترچه آزمونم می‌نوشتم. خیلی خوبه. آره منم همین میگم. تری تریش چه خالی بشین. فکر کنی که یعنی نظرت چیه؟ فکر می‌کنی که وبلاگ تا کی هست آیا همیشه هست یا نه یه روزی میاد که کلن از بین بره و کلن یک کسی ننویسه من دوست دارم باشه همیشه ولی یه ترسایی تا دلم هست که نکنی یه روز ببندنش بگم بس دیگه تا الان که جایو نگرفتید از این ببادم نمیگیرید میترسم ببندنش خدا کنه که باشه نه من فکر میکنم تا زبانی که و بوجود داره ببلاکم هست حالا شاید بیانی یا بلاک فای اینا نباشن یه روزی دمون بشن ولی کلا وبلاگ نمیشتم فکر میکنم تا زمانی که وب باشه وبلاگ هم بشه داش. حالا به نوعهای مختلف یکی وبلاگش رو توی کانال تلگرامش می نویسه. یکی توییت میکنه یکی توی سایت ویرگول می نویسه. یکی توی پرژین بلاگ داتای آر می نویسه ولی من فکر می‌کنم کلن روز نوشته و دلنوشته روزی برسه که یواش یواش جاش رو به نوشتهای ادبی بده و که هیچ راحتی توش نیست و هیچ محاوره توش نیست و من طرفدار این سبک که از بیبلاغام که روزنوشت می نویسن طرفتار خیلی شدیدشم هستم و همونطور که گفتم دوستیم دارم بسم سارا که دقیقا از این جنس می نویسه و واقعا العاده است کلاند ها به این سمت تخصصی شدن داره میره و شاید به نوعی مرگ این نوع و این تیپ رو شاهد باشیم که برای من خیلی تلخه ولی خود از فنی وبلاگ نمیسی فکر میکنم تا زمانی که وب باشه اینام هست امیدوارم مذاکراتم با سارا به نتیجه برسه و ایشون یه وقت باز کنه وقت کنه و اون هم بشینه روی این سندلی و با من یک گفتگویی داشته باشه چون من خیلی دوست دارم باش گفتگو کنم و بدونم که واقعا چرا قدی خوبه این بشر و خب من شخصا دوست ندارم این تیپ هست و باقا از بین برم منم مشتاق شدم که گفتگو تونو بشنوم آره حتما یه لطف کنه وقت به ما بده و برسونیم ما تا قبل از ماه ماه خیلی خوب میشه آره خب ترخ و شیرین ترین اتفاقی که توی دنیای وبلاگ برات افتاده چیه؟ بهم بگو. خدا رو خیلی اتفاق... اتفاق ترخ نداشتم که بخواد یادم بمونه. معمولاً بعد چند روز یادم رفته. ولی یکی از شیرین تریناش میتونم بگم وقتی بود که بعد از 6 ماه برای اولین بار تصمیم گرفتم وبلاگم ببندم و پست گذاشتم. پست خدافظی گذاشتم. و اصن باور نمی انقدر کامنت خوب بگیرم. انقدر دوستای خوبی داشته باشم که اصرار کنن که بمونم من به خودشونم گفتم که واقعا هیجان زدم کردن سپرایش شدم چون خیلی دوستای خوبی پیدا کردم بعد از اون اتفاق و دلگرم شدم که بمونم امیدوارم که دوستات همیشه برات بمونن و همیشه داشته باشیشون من اتفاقات ترخوشیرین زیاد داشتم که یه هاست باید بیاد با من گفتگو بکنه و خب... چون یه چالشی که برگزار کرده بودم و همه سواله مهم رو اونجا کرده بودم الان نمیدونم واقعا از چی بپرسم خب تو هم شرکت کرده بودی اونجا پرسیدن توبارش یه یعنی مقداری تکراره ولی اگر مدیر خود بیان بودی امکاناتی که اضافین و مشکل سازن چیان؟ چی ها رو می کردی و چیا به محیط مدیریت اضافه میکردی و فکر میکردی اینا خوبه که وجود داشته باشن چه سوال سختی پرسی به نظرم امکان دنبال کردن و اینکه دریافت پاسخ نظراتمون رو حفظ می‌کردم تا مجبور شیم برای اینکه ببینیم کامنت رو جواب دادن یا نه سر بزنیم به اون پست و اینکه کاش می‌شد م... کسایی که روزانه وبلاگ رو بازدید میکنن و لیستشون رو ببینیم خیلی دوست دارم بدونم خارج از فضای بیان کییا میان میخوننم یا روزانه به ویبلاک هم سر میزنن در مورد مورد اول با هات و اصلا قسمت دنبال کردن بیان خیلی حاشیه با اسپم درست کرده عذیت کننده است و خب در مورد مورد دومم هم فنیه بلا به کل اینترنت برمیگرده اصلا کار عملا فکر نکنم ممکن باشه چون آی پی ها و خب سبتن نشودن. نشدن مثلا یه شماره آی پی نشون نمیده که کیه مثلا ثبت نام نشده که مثلا شماره آی پی فلان مثلا صاحبش مثلا اسقره به خاطر اون این عملا غیر ممکنه ولی خب اینکه آخرین بازداد کیا هستن میتونه از روی شماره آی پی ببینی و ببینی که چه آی پی ای بیت سر زدن از اونجا متوجه بشی که کیا دارن میخوننت ولی خب همه که آی پی خاص ندارم متاسفانه و آی پی ام خب عوض میشه و این مقداری از این جهت سخته آرزو, آرزو باشه که خب آرزو خیلی قشنگیه آرزو با جوانان ایب نیست خیلی عالی اول بگو کل این تایم ویبلاک میویسید و چطوری تعریف میکنی؟ و کلن حست به کلش چیه؟ میتونم کل این تایم رو یه دوران طلایی بگم که من از خیلی از بحرانای روحیم رزگرد واقعا حالم قبل و بعدش خیلی فرق کرد و اینکه میگم کاشکی زودتر می نوشتم، یا کاشکی مداوم می نوشتم قطش نمی کردم. خیلی بد شد که اون چند سالو رو ننوشتم. حسم حس خوبیه خیلی و وببلگ نویسی رو. خب حسامون تقریبا مساویه خوب این حسرت منم هست که کاشکی از روز اول همه نوشت جای ذخیره میکردم یا، با یه وبلاگی داشتم که کلن می نوشتمش تا آخر و س امروز شاید می شد 15 سال 14 سال 16 سال صابقه نمیدونم دقیق. ولی خب خیلی حف شد ندارم متاسفانه. چون من خیلی آدرس خریدم آدرس داشتم عوض کردم. و خب از این جهت منم مثل تو هم. خب اگر میشه منو وبلاگم رو نخت کن و بهم به بگو. یعنی ایرادات من رو فقط توی وبلاگ بگو اولا که چرا اون قسمت مهمون کردن رو حذف کردی من خیلی از اون قسمت خوشم میومد. بعدشم به کاش اون وبلاگ روزان که تو بلاگ پا داشتی و دوباره را بندادید خوشم یاد روزان دوستامو بخونم نقد اولت که خب روی چشمم ولی خب برای حذف کردنش دلیل دارم بخاطر اینکه که بعدش اص... اولش احساس کردن خیلی کوله ولی بعدش احساس کردن که نه چون اون وقت فقط محدود میشه به همون میزان حمایت و فکر ها میکنن هرچی که اونجا بدن فقط صرف خریدن قهوه و پوفک و بستنی و اینجور چیزا میشه به حاطر تصمیم گرفتم عوضش کنم بعدم آخه یه طوری بودش که آدما اینطوری به آدم ها کرد که انگار فقط حمایت کردن یعنی اینکه، که بیدی مثلا پول بفرستی طرف داره پفک بخره ولی خب حمایت کردن انواع اقسام مختلفی داره کتاب هدیه دادن کتاب معرفی کردن چه میدونم حرف زدن شبکه اجتماعی فالو کردن ریتوییت کردن همرسانی کردن این همش حمایت حمایت همش پول نیست ولی خب خواستم این قالبو اینطوری بکنم که کسایی که میخوان کمک پردازشی بکنم بتونن کسایی که میخوان حمایت مالی کنن برای یه پروژه خاصی بتونن حمایت مالی بکنن پول بدن و در نهایت کسایی که میخوان حمایت غیر مالی بکنن اون قسمت دارن ولی اگه خیلی فکر میکنی ایده با هالیوود چشم یه دونه قسمت دیگه دوباره باز میکنم و می‌نویسم که منو مهمون کن و کسایی که بخوان منو مهمون کنن برن اونجا با درگاه جدا یعنی هر پولی رو که اونجا پرداخت بکنم، من باهاش همون چیزی رو میخرم می خورم که توی اون لیست اون آدم من مهمون کردن حتما اینه می زارم نقدم اولیت که خب روی چشمم در مورد نقد دومت باید عرض بکنم که خب من دوتا تا بلاک داشتن خیلی مخاطب ها رو گیج میکنه و خیلی سخته براشون که دوتا دنبال کنن یه روز این بر نظر بدن یه روز اومد. بر... جمع بکنم یه جا خیلی قشندتر و بهتره و فکر میکنم که اگر یه جا باشه خیلی بهتره الان دارم البته یه سری سیستمایی رو آزمایش میکنم که اگر درست حسابی کار کرد میخوام توی همون وبلاگ بخشی رو باز کنم و اونجا بنویسم که مثلا روزانه هم بیاد اونجا یعنی یه قسمتی از وبلاگم بشه ولی اگه نشد خب من روزانه ها پخش و پلا هستش مثلا توی روزانه بیشتر توی گوگل پلاس می نویسم اگر گوگل پلاس دارین و من رو دنبال کنید ببینم دنبال کنده ها به یه که ارزش داره بشینم روزانه توش بنویسم از توی گوگل پلاس میتونید توانید های من رو بخونید که البته گاهن من توی اینستاگرام و کانال تلگرام هم می نویسم اینا رو یعنی نمیتونم پیشنهاد دومت رو برم دوباره وبلاگ بسازم دو دو وبلاگ بشه ولی اگر دوست داشت عزیزانی که دوست دارم میتونم گوگل پلاس من رو دنبال بکنن و از اونجا خب روزانه های جدید روزانه ها رو می اگه ببینم دنبال کننده وجود داره خیلی ممنونم که نقد کردی یه چیز دیگم هست اینکه که بعضی پستات خیلی لحنشون خشکه یکم ارتباط برقرار کردم با سخته به نظرم لحن پستام هم نرم میکنم چش. آخه اون خیلی جالب بود که مثلا من میتونستم تصمیم بگیرم چه چیزی مهمونت کنم آره جالب بود چشم اونو حتما میذارم که بتونید منو مهمون کنید در رابطه با روزانه ها من میتونید کانال تلگرام، آدرس اینستاگرام و گوگل پلاس منو مخص و توییترم رو دنبال کنید و بخونید من کانالتو تو دنبال میکنم ولی خیلی کم نویسی پس پسات رو بیشترش کن. چنش پتمن بیشترش میکنم ولی خب اگر گوگل پلاس من رو همت کنی خیلی خوبه و من اونجا بیشتر و تخصصا راجب روزانه ها میتونم بنویسم خب خیلی ممنونم که در هر صورت من نقد کردی مرسی ممنون از نخت پذیرید نیلی احل کتاب هستی چرا کتاب کت مطمئندم که زیاد کتاب میخونی و چه کتابی رو خیلی دوست داری؟ یا چند تا کتاب رو خیلی دوست داری؟ اونایی که خیلی دوست داری رو اسمشون رو بهمون بگو آره کتاب زیاد میخونم میتونم بگم اشخه اولم کتابه کتاب که زیاد پاشون ارتباط گرفتم و دوستشون داشتم یکی کتاب دا بود که خیلی پاش ارتباط گرفتم و عشقم رو درورد کتاب دیدم که جانم میرود کتاب ملت عشق و مردی به نام اوه و میتونی لطف کنی از کتابهایی که داری کشون انتخاب کنی و یه پاراگراف ما رو مهمون بکنی برمون یه پاراگراف بخون و ما رو مهمونون پاراگراف بکن و بگو که چرا اون رو انتخاب کردی یه قسمتی از کتاب جودی عبود هست که جودی تازه با با انگلاز آشنا شده و تو نامه داره تصمیم میگه که به چه اسمی صداش کنه بعد من این خط خیلی دوست داشتم و نوشتمش. ام. اینجا زبان جودیه. فکر کنم شاید بهتر باشد به شما بگویم آقای ثروتمند عزیز. اما این توهین به شماست. چون انگار مهمترین چیز شما فقط همون پولتان است. همین؟ خب انتظار داشتم یه پاراگراف مهمون بشیم. ولی خب یه خطم کافیه. یه خطم خیلی ارزشمنده خیلی خیلی ازت ممنونم. که مارو مهمونه یک خط از کتاب جودی ابوت اثر جین وبستر اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم اسمشو کردی به نظرم این یک خط کاری یه پاراگرافو میکنه دیگه من که خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم فکر نمیکردم مصاحبه اینقدر جالب باشه خیلی به من چسبید مرسی <تصفيق> به منم خیلی چسبید مخصوصا قسمت میکسش که در حدود 150 تا فایل رو باید با صدر خودم میکس کنم ولی به منم چسبید در هر صورت خیلی ممنونم که شرکت کردیم نیلی عزیزیه آهنگ مهمون کن، یعنی ما و شنمندگان عزیزی که دارم میشنم یعنی تنها کافی اسم یه آهنگی رو اینجا بگی تا شنوندگان عزیز توی تیتراژ پایانی این برنامه صوتی به اسم تو و به دعوت تو اون رو بشتمن یعنی این آهنگ به اسم تو ثبت بشه و تو هدیه کرده باشه اون رو به مخاطبان فقط یادت باشه این آهنگ اگر به صورت رایگان پخش شده باشه که کامل آهنگ رو پخش میکنیم و مخاطبان تیتراژ پایینی کامل میشننش و اگر این آهنگ توی آلبوم خاصی باشه که اون آلبوم الان داره به فروش میرسه و نمیشه همش رو گذاشت ما فقط یک پن یک دقیقش رو به صورت یادگاری قرار میدیم که بشنوند و لذت ببرن اه این آهنگ رو بگو و مخاطبین ما رو مهمون کن و بگو که چرا این آهنگ رو انتخاب کردی یک هم انتخاب سختیه ولی ترجیم دم آهنگ آهای خبرداره همایان شجریان رو کنم را راستش اولین با این آهنگ رو تو فیلم رگ خواب شنیدم اون فیلم برام خیلی دی... دردناک بودش وقتی این ها هنگو تمام سحنه میاد جلیه چشمم یاد مظلومیت همه خانوم ای ایران میافتم اینکه که چقدر پذیامون درمونده ایم چقدر تنهاییم و چقدر نیاز داریم که به خودمون بقبولونیم که ما چیزی از بقیه کم نداریم ما هم مثل مردایم حال یه ذره شاید از نظر فیزیکی روحی متفاوت باشیم ولی از نظر حقوقی ما هیچ چیزی کم نداریم باید یاد بگیریم روپای خودمون وایسیم نظریم انقدر ساده از راه احساساتمون بشکنیم آسیب ببینیم برای همین هر وقتی نهانگو گوش میدم دوست دارم که یک تلاشی تو اینجا حد بکنم حداقلش اینه که به اطرافیان خودم این حقشونو یاد یادآوری کنم پس دوست دارم که همه اینو بشنون تا همه حداقل راجع به اطرافیانشون این کارو انجام بدن تلاش کنن که حقوقشون رو بگیرن و دیگه شاهد همچین ماجراهایی نباشیم. خیلی موزیک فوق‌العاده‌ای رو معرفی کردی و خیلی ممنونم که ما رو مهمون کردی خب شهرماندگان عزیز نلی شما رو با آهنگ همايون شجریان آهنگ خبردار که اثر همايون شجریان عزیزه مهمون کرد که در تیتراژ انتهایی اون رو میشنوی و اینکه خیلی ممنونم که به حمایت از حقوق زنان اشاره کردی و اینکه من خودم شخصا هامی حقوق زنان و هامی حقوق برابر برای زنان و مردان و مخالف خشونت علیه زنان هستم و مبارزه کنم با این قضیه با فرنگسازی و اینا و حمایت میکنم و امیدوارم که روزی بیاد که هیچ خوشونتی بر علیه هیچ زنی توی جهان اتفاق نیفته و یواش اواش آدمو بفهمن که هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و هیچ مردی از هیچ زنی بالاتر نیست و اینا باید حقوق کاملا برابری داشته باشن و شاید به قول تو به لحاظ فیزیکی تفاوت هایی داشته باشن یا به لحاظ روحی تفاوت های جزئی داشته باشن ولی به لحاظ حقوقی کاملا باید از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشن و من هم با کاملا موافقم و اصلا من خودم شخصا حامی حقوق زنان هستم و امیدوارم که باز هیچ خوشونتی نه توی ایران نه توی هیچ جای دنیا چه عمومی و چه خوش... توی محیطای خصوصی اتفاق نیفته و خیلی فیلم عالی رو هم بهش اشاره کردی با بازی فوقلاده خانم هاتمی که همیشه نقش خانمای خیلی انتکتتو با کلاس رو بازی میکرد و نقشش توی اینجا خیلی متفاوت و دوست داشتنی بود و این فیلم رو من هم خیلی دوست داشتم. خب شنوندگان عزیز این موسیقی رو نلی به شما هدیه کرد و به امید اینکه روزی همه حامی حقوق زنان باشن گرچه، همین حقیل نام برده خیلی توین ها شنید وقتی که سال 95 شروع کرد این طور پوست ها رو نوشتند ولی خب باید راجبش حرف زد و همه رو یاد داد و مرسی که بهش اشاره کردی و میرسیم یواش واش به سوالات آخر اگر جامون عوض میشد و تو باید با من گفتگو میکردی و سوال میکردی چه سوالاتی رو میکردی؟ بین یک تا سه تا سوال رو مطرح کن و من هدفون رو از گوشم در میارم و سوالات رو نمیشنوم و وقتی که داشتم کار میکس این ها رو انجام میدادم پاسخ سوالات رو میدم و میتونی هر زمان که فایل صوتی منتشر شد این پاسخ ها رو گوش بدی و جوابت رو هم تو و هم مخاطبان عزیز به این سه تا سوال بگیرید. خوب، ساتا سوال تو بپرس. <تصفيق> وقتی انتقام رسید، اولین سوالم اینه که تو هم ترخترین و شیرین ترین خاطرت از وبلاگ نویسی رو بگو. دومین سوالم اینکه وبلاگ منو نقد کن. سومین سوالم هم, هم تکراریه اینکه که هدفت از وبلاگ نویسی چیه؟ ایدالت چیه؟ دوست داری به کجا برسی؟ خب خیلی ممنونم از سوالاتی که کردی. باشه. و حتما بهشون جواب میدم و این که سوالی که مونده با آخر اینه که که من از یکی از برنامه های صوتی خیلی مشهور و معروف که خودمم گوشش میدم و خیلی دوستش دارم کپی کردم و با یه مقدار تغییر ازت میپرسم و اونم اینه که درست اون روزی که انرژی تموم شده و دیگه میگی بس و نمیخوای دیگه وبلاگ تو بنویسی و میگی تمومه دیگه نمیتونم و افتادی چه حسی چه نیرویی و معمولا کلان چی دورو بلند میکنه و میذاره که کلان از این تصمیمت منصرف بشی و دوباره بنویسی بعضی وقتا میشینم پست میخونم خوندن پست باعث میشه که خودم خودمم هوس کنم بنویسم بعضی وقتا چند روز فاصله میگیرم بعد دلم تنگ میشه این حس اعتیاد بهم برمیگرده میبینم دیگه نمیتونم بدون اون ادامه بدم برمیگردم مینویسم و پسی وقتا هم میشینم کامنت های قدیمی یا پست قدیمی خودمو میخونم اینا باعث میشه که این حسم دوباره بیدار بشه و نظر مورد این گفته گو. کاش تمام نمیشد خیلی مصحبه خوبی بود واقعا لذت بردم <تصفيق> خیلی کوتاه و عالی و خب اگر تمام نیم شد پدرم من بیشتر توی میکس و مسترینگش در میومد ولی شوخی میکنم آره کاشکی که تمام نمیشد خیلی ممنونم که شرکت کردی و وقت گذاشتی ببخشید که خیلی وقتت محدود بود و خیلی اذیت شدی خیلی ازت ممنونم مرسی که شرکت کردی و تا ساعت چهار صبح بیدار موندی تا با هم مکالمه کنیم و این گفتگو رو تمومش کنیم و چون به خاطر اینکه من تا ماه محرم عجله داشتم و خیلی ممنونم از اینکه همکاری کردی لطف کردی امیدوارم همیشه موفق باشی و همیشه بنویسی تا ما هم کیف کنیم و حال کنیم و همیشه موفق باشی و همیشه اتفاقات خوب برات بیفته و امیدوارم که همیشه نوشتن ادامه بدی از شنوندای عزیزم تشکر می‌کنم که صدای مرا تحمل کردن تا آخر گوش دادن از تو هم ممنونم به خاطر این ایده خوبه روز وبلاگ نویسی فارسی رو به همه شما بلاگرها و خواننده های خوب تبدیک میگم و امیدوارم که یه روز دور همین روزو جشن بگیریم همچنین امیدوارم قلمت مانا باشه واسه هم برامون بنویسی و ما کیف کنیم خب میرسیم به سوالاتی که از من پرسیده شده بود سوال اول رو با هم میشنویم خب الان وقتشه که جواب بدم تلخ ترین و شیرین ترین خاطره من از وبلاگ نویسی تلخ ترین خاطره من میرسه به طرف های سال 89 فکر می‌کنم. این سال ها یک دوستی داشتیم که وبلاگی خیلی خوبی داشت مینوشت و اینا و متاسفانه مشکل قلبی داشت ایشون و فوت کرد خیلی دوستی خوبی داشتیم با هم و متاسفانه دیگه نداریمش ایشون همون سالا فوت کرد و خب این خیلی تلخه برای من به نوعی میشه گفت تلخه در یه تاریخ وبلاگ نوویسی منه و شیرینترینش هم اینه که توی دنیای وبلاگ یک دوستی رو پیدا کردم که خیلی دوست خوبی برام شد و با هم ارتباط داریم صحبت میکنیم و خیلی دوست عزیزی شد برام و خب این پیدا کردن این دوست و داشتن این دوست خاطری بسیار شیرین من از دنیای وبلاگ نویسیه. در مورد دومین سالت، نقد خاصی به محتوا و کلن فنیت فن ندارم ولی یه مقداری بیشتر مخاطبا رو ببین یه مقداری بیشتر باشون این داشته باش خیلی خوبه به نظر من گاهی وقتی آدم حواسش پرت میشه و یه چیزایی رو فراموش میکنه ولی سعی کن تنان نقدی که بد دارم اینه و دومی نقدی هم که حالا یادم افتاد اینه که هیچ وقت نرو همیشه باش همیشه بنویس. هدفم رو خب توی برنامه های قبلی کامل توضیح دادم اینجا هم یک بار دیگه میگم که هدف من فقط آگاهی بخشیدن و اطلاعات دادن به مخاطبانه و اینکه برای بقیه مفید باشم بتونم بقیه رو کمک کنم و این حرفا هدفم اینه که امیدوارم بتونم به آدم های بیشتری کمک کنم، آدم‌های بیشتری رو بشناسم، دوستای بهتری پیدا کنم و دوست های خوبی رو تجربه کنم و ایدال هم که امیدوارم که یک همیشه بهترین باشم و همیشه خودم رو با خودم مقایسه کنم و به نسبت دیروزم آدم بهتری باشم خیلی ممنونم بابت این سوالات و خیلی ممنونم که شرکت کردید خب شنوندگان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم امیدوارم که از این برنامه حسابی لذت برده باشید از تشکر می کنم از نیلی عزیز که مهمونمون بود و خیلی ممنونم که ما رو تا اینجا همراهی کردید. من حاطف بودم، گوینده این برنامه صوتی. آدرسم blog.hatif.click هست که اگه دوست داشتید میتونید منو دنبال بکنید و و امیدوارم که همیشه شما هم مانا و خوب باشید. پایین برنامه رسیدیم همونطوری که مهمان برنامهمون شما رو مهمان موسیقی کردن با هم موسیقی تدرااج پایانی رو میشنیم و من از حضور شما مرخص میشم خدا نگهدار آهای این خبردار مستیایا خ شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک سینه من شده ای از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار